اللهم صلی اللهم محمد و عالم محمد عوضو بالله من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم وقت شما بخیر از عدب احترام محضر شما یه فاصله افتاد چند وقتی این کرونا باعث شد به این روایت عهده رو هم روایت عهد 61 گیر کردیم ما نگاه کمدم روایت عهد 62 من ابتدا تشکر کنم از آیه اکران اجاد عزیز و این نکتر رو به عنوان مقدمه بگم که ما در زیارتنامه که برای اهلویت میخونیم عرضه میداریم لعن الله من قتلک بلعیدی و علسون لعنت برای بر کسی که تو رو کشت با دست و زبان یعنی ما وقتی قاتل با دست و زبان داریم خب طبعا مقتول با دست و زبان هم داریم یک نفر مقتول صلاح حمله موشکی گلوله است چه چه یکم هست مقتول زبانها و حجمه های رسانه همه اینا اولا اولا پیشبینی شده توسط قرآن عزیز میفرماد اون قومی که در آخر و زمان میان آمادگی داشته باشن نه ترسید چرا می چرا نه ترسید چون میخواد بگه هدف از این سرزنش ها از این حملات رسانی ترور شخصیت ها ترساندن شما برای عقب نشید ترساندن شماست پس نترسی. و توفیقی اگه یه روزی آدم بعدن بفهمه بابت این حجم و حمله که صورت میگیره به آدم اون دنیا چی میخوان چه عجری بهش بدن موهای کاش صبح شب پیش از هم یعنی من هم مستند به قرآن عرض کردم هم به روایات برای اینکه دل قوی دار محکم استاد اصلا نباید کوتاه آمد باید این سکوت رسانهی و مارپیچ رسانه ای که اینا ساختن و شکست فریاد بزنید جز اولین ها باشید بدونید که خدا اولین ها رو دوست دارد و سابقون از سابقون امیر الماین اولین است که در مردان ایمان میاره به پیامبر ایشون فضایل فراوان داره یکیش اینه. حضرت خدیجه سلام الله علیه ها یکی از فضایلشون اینه. اون کسی که خط شکنی میکنه خدا خیلی دوستش داره. بله منطقه بلاخره باید هم رایت کرد دیگه. شرایط و زوابه توش و شیعه خودشو به کشتن نمیده علیکی. انقدر خوب می تا آخر دشمن چاره جز هست بایدانه میکنه. من بارها حتی اون جلسه معماری بود در مورد معماری اسخمه گفتم گفتم شما یا بعدها هم گفتم شما کمتر مذهبی رو پیدا می‌کنید در دنیا مثل تشیع برای همین فیزیولوژی برای بدن برای سلامت بدن پروتکل داشته باشه. آجل لباس تن کردن، غذا خوردن، ببخشید تا سرویس بهداشتی رفتن پروتکل داره. اومدیم و یه درصد اون لحظه تو سکته کردی این پاد باشه که بیفتی بیرون. آقا چند درصد بیش مدی نفر موقعی مست یه اومدیم و شد آقا مجسمه شب تو اتاقی مجسمه هست نخواب خواب یه لحظه بیدار میشه میگونید نفر بلا ستی سکته میکنم میفتید همه اینها رایت میکنه یعنی جان عزیز است حالا این چیز عزیز رو در راه خدا تقدیم میکنه راحت هم تقدیم میکنه خوفی هم نداره مثل مولاش میگه فست براب بل کرد من وقتی من این چیزو روخ میخوام بگم شهادت سید حسن نصرالله منو بیشتر از شهادت حاج غاسم اذیت کرد. نه بدونید نظر خدا میگم. خب یک لهر لح... ایشون خیلی تحت حجمه بود. سید حسن حاج غاسم اینجوری نبود. حاج غاسم محبوب بود. سید حسن نصرالله در زمان جنگ داعش اصلا الفاظی در موردش استفاده می در همون لبنان اصلا تحجیب بودن قبل از ماجرای سوریه و درگیرهی در سوریه پیش آمد سوریه سفری داشت بل... سوریه سفریشن اونجا رفتیم لبنان عجیب بود برام مثلا تو زاهیه پر از اکسای امام و رهبری و فلان بعد از زاهیه می اومدید بیرون تو همون بیرود در و دیوار بنر باید اسلحه اینا گرفته بشه فلان به همان سخت بود مسیحی و شیعه و سنی بعد انا شیعهاشون هم مثل باز چند گروه هم مثلا امریکت خودمون چجوری از سوپر ازبولایی داری تا شلو شلتر و خیلی شلو نمیدونم فلان اونا هم همینجوری دارن جریان عمل یه قصه است نمیدونم خیلی پیچی دست فضایی اما خب خیلی زنده یادم آدم باید عزیز باشه خود دوستش داشته باشه هم در دنیا هم اجر اون لومه لائم رو برد سرزنش ها رو شنید و هم آخر جسمی هم مشاهده درست. و دارم مهمه چرا اسمینو اینو گذاشتیم جلسه اینا اینک آخر و زمان برای اینکه یه سخنرانی از چند وقت قبل هی دارم ذهن مردم آماده میکنم کنم همشم یه نمیشه گفت خب همون سختی هایی که برادرمون داره آی آقای فرهاد عزیز ما هم داریم یه حرفی رو ده نفر دیگه زدن به خدا زریف ظریف زده پزشکیان زده ابتکار زده آیه آقامیرای شورای شهر تهران زده بعد آیه فؤاد ایزدی کارشناس اینا تو تلویزیون بعضیاشون گفتن خوب گفتن من این حرفم تازه نزدم یعنی حرف ادعای که اونها کردنم تازه نکردم من دارم وباتش میرم دات میام من دو وباتش تام میرم دات نه که از دادگاه رفتم به نه من دادگاه جمهور اسلامی رمیزم رو سرم خوب و این حرفم نه این از دادگاه به میگم نه من که من ساختارای نظام رسمیت میشنم رسم. خوب اما برای این میخوام بگم که همون یک جمله اینجا شما میگی پخش میشه این شبکه اجتماعی هر کسیم که تختی کنه خیلی سخته کار ما خیلی سخت دقت کنید من وقتی دارم نقل و قول میکنم بارها پیش اومده اینو یعنی داشتم میشه نقل و قول میکنم سوم شخص رو اول شخص نمیگم مثلا نمیگم طرف گفت داشتم میرفتم چون میدونم طرف گفتشو هست میکنه داشتم میرفتم به جا خودم جا میزنه بارها اتفاق افتاده میگم یعنی طرف میگفت داشته میرفته فلان فلان نشه خیلی سخته ها یعنی مثلا رو برسونی اون به تریج قباش بر نخوره اون مسئول فسیل ناراحت نشه اون دشمن سوء استفاده نکنه مردم ناامید نشن امید پیدا بکنن یک وقت اطلاعاتی مثلا لوام ندی لوام ندی نمیدونم چی چی کلی کارم در بیاری بالاخره باید یه چیزی بگی که ملت تو تلویزیون نمیشونن دیگه باشم بیان اینجا دیوونه مگه باشم بیان امید تلویزیون رو پخش میکنه دیگه افق فلسطین داره نشون میده بعد ما از دو جهت تحت فشاری ما الان اینا کلیز فوش میدم به صداسی دیگه الان این طیف وفاقیون میشینم پا میشن فوش میدم به صداسی ما اما این صداسی جبلیه جلیلی هاستی جبلی, ها. جبلی و جلیلی هم نمیذاره ما را اونجا برنامه بر... صح... یک سال فل... اسرائیل لمله کرد چند بار من تلویزیون دید اونم فشار مردم بوده این چی میگم اما بازم هم میگم من به انوازه خودم وظیفه خودم طبیعی نکته به شما بگم اینجا لازمه من بابت مسئله که در کشور پیش آمد بعد از انتخابات و اینو من فهمیدم که تو هر کاری کن میخواد بکنه بکن با سیاست کاری نداشته باش این بود فضایی که من در, در کردم من نامه نوشتم خدمت رهبرمون 15 صفحه نامه نوشتم خیلی از مسئول برایشون تشریح کردم توضیح دادم و پاسخ هم خواستم تو جایی که مصروح برای من روشن کنید بهشون پاسخ دادن الان نزدیک 340 روزی ازش می‌گذره اولا بر... بر من خیلی خوب اون عرضش من بود حتما حدسم میزدم همین پاسخوا رو بشنوم منشیشونو میشنوسم من منتا چرا اینجوری نیومدن میگفتم آدمی نیستیم رو پشتشون قایم کنیم ایشون پاسخ دادن که با یا یه چیزی نقل میکردن که ایشان ترویج نشود طرف به اسم مثلا مسئول اطلاعاتی میواد اکانت میذات تو تویتر توییتر زده نشود ایشان ترویج نشود من میستم چرت هم بازم هم همینم هم نمیپرسن ایشون صراحتن پاسخ دادن که مطلقا من در مدت تو همچه حرفین را زدم خب اینقدر راحت دروغ میگه طرف. خب بعد من برشون نوشتم به قول خودمونیش اینه که آقا شما لازمیش سینا بگن اشاره کن خودم کرکره را میدم پایین <تصفح> نه مطلقا با عزم کارتون ادامه بدید عزم یعنی چی؟ یعنی سختین این مسیر یعنی میخوان اراده انسان را چگاه کنن سوست کنن فکر توصیه های دیگر که اگه به وقتش خواهم گفته، الان هم شاید باز بگم یه خوری از سیاسیون یه هدهشون به تیریج قباشون باز بر بخواه سو استفاده کنن خب برای همین حالا فعلا نکته ایران وقتش می بدون سخت حالا که شرایط اینجوریه وسط جنگ الان یعنی هم این الان پیوست رسانه جنگ لبنانه انقدر این مسئله رسانه مهمه که امریکا یا کلی شماتت کردن نتانیه رو خب احمق بری پیجرارو اون موقع انجام دادی میذاشته همزمان با حمله زمینیت انجام میدادی که هزبالله کپ کنه چرا این کار زودتر انجام دادی که چی که اینا بتونن یه فرصت داشته باشن بازیابی کنن بعد تو بری حمله زمینی انجام بدی منطقا اینا باید عملیات رو هیبریدی تر رایی میکردی همزمان باید می بود. توی حمله زمینه آغاز شده یا مثلا این پیجران میتره که چندی نفر از اعضای حزب چشم ها و دست ها اینا آسیب میبینن بعضای شهید میشن حال این پیجر تو خونه بوده بچه کوچیک برداشته آره طرف بچهش تی که باره بشه بهش فشار نمیان چرا این کار کردی؟ به اونات همه چی رو رسانه میسنجن از روز قبلی که میخواستن اون عملیات رو انجام بدن این محمد علی حسینی لبنانی اصل و تابعه عربستان سعودی 2011 بخاطر جاسوسی این آدم دستگیر شد رسم تو دفتر کارش عکس ملک عبدالعزیز و سلمان و بن سلمان و پرچم عربستان سعودی داره عربستان به کسی چیز نمیده تابعیت نمیده به این داده 17 میلیون مهاجر داره به یک نفرشون تابعیت نمیده به این داده بعد این روز قبلش من گفت من با آقای صدن هست رو میگم ایران تو رو فروخته ها برای چیم قشنگ معلوم میخوان یه کنن اصلا یکی از جایی که ما پیش بین نمی آینده رو کجاست ؟ خط رسانه ایناست یکی از ابزار ما خط رسانه ای دشمنه. رست میکنیم میفهمیم الان شما قشنگ میفهمید این رو پهلوی رو این خرتو میگن چی میگن سست و آره. اینا برداشتن. آوردنش یه موجد رسانه‌ای درست کردن که چی باید برگردونم خلای قدرت و تو خلای قدرت هم نمی‌تونی پر بکنی چه مثلا خلای قدرت بعد چرا منم خب من ملتی که یعنی کسی تا حالا دید استفراغ کنه دوباره بردار بردار صفرش بخوره ببخشید اصلا حال تو من ملت یک بار پادشاهی و سلطنتو استفراغ کردن دیگه نمیان که ترکای زرماسر دارن یعنی میگن چیشی تو پردغون میگم مرد توفیق که انداخته زنیم خم نمیشه لیست بزنه خب مردم ایران سال شما توف کردن پرتیتون کردن بیرون دوباره که نمیان شما عروض همین جمعتون بکنن خب <تصفيق> <تصفيق> اما یه عمر عروسی دست داده ریتمیک می زد... دست می انتظار داشتی؟ انتظار خاصی داشتی اینجا روی سن بعد اما میبینه همزمان میخواد برگرده با تایمی که الان دوران خلع حمله اسرائیل خب اسرائیل میخواد حمله کنه اسرائیل میخواد کنه همزمان یعنی چی این خط رسانه‌ای یعنی اینکه در داخل هم اتفاق خواهد افتاد متوجه شدید او داره اینو میسازد برای چی ما کشش دادیم یه خورده تو پاسخ چرا بخشی از این بدونید مسئله نظامی بوده بخشی از این مسائل سیاسی بوده اینکه رهبر انقلاب صراحتن گفتن که ما نه شتاب زده عمل میکنیم نه تعلل یعنی چی کار داره آقا دفعه اول موشک زدی داری بررسی میکنین پدافن چجور عمل کرده بوده خب این کارو باید تصحیح بشه فکر کردی اسرائیل این کار نمیکنه به اسرائیل نمیگه من ارادات هم کجا بود نسبت جنگ تکنولوژی روز به روز دست بالای دست بعد اونا هم که تمام تکنولوژی دونه در خدمتشونه مال خودشونه انتظار دارید که مثلا نه الان مردم میگن زود باش هم چشم عباسه بزن درصد موشگار هم بزنن مباده اینجا یار شاتر که نیستی بار خاطر بشی کمک که نمیتونی بکنی دعوا که نمی‌کنی بیا هم بکنی. فکر نم بکنی دارم الان مثلا کمک رسانه نمی‌کنم. نه این اندازه داره فهمش درستش که این پاسخ کی باید داده بشه؟ چه جوری باید داده بشه؟ همه اینها مهمه. اما چرا اینا که آخر روز زمان این چند وقت از بنده میشه که دنیا روزهایی رو با خودش خواهد دید که این تو الان دیدید جوکه. درست یا نه؟ زمان ماجرای خانم امینی نگفتم همینو. گفتم این ماجرای ایران تعجب کردید وایسیدید. این روزها را می دیدم. از این بدترش هم در پیشه. از این بدترش هم برای دنیا در پیش است. کل دنیا. اگر ما خوب عمل کردیم ایران جزیره ثبات خواهد بود. اگر درست عمل کردیم جزیره ثبات خواهد بود. بدونید کار سختی در پیشه باید با دقت از این پیچ و خم تاریخی از این گردنها ها باید عبور کرد. نه باکسوبات کنید اندقه برگردی نه انقدر گاز بدید دره پرد چی بیرون قدیمه مای پیکانی داشتیم رفتم جنگل ابر شاهروت گاش نمی رفتم رفتم چقدر قشنگی این عبرها رو نگاه مثل این جکوس آقه لوبی این عبرها زیر پات بود اصلا یک وزی بود بعد نشستیم نهاره رو خوردیم و هم دادیم چه هوا خونک شد و ما چه می این ابر رو داره میاد بالا حالا با پیکان هم رفته بیدیم توی این سرازیری بعد برگشتیم بخواستیم برگردیم دیدیم اه اصلا چشتشو نمیبینه چشتشو نمیبینه که یعنی واقعا یه متر نمیتونستی ببینیم بعد اونجا چند نفره گفت با این نمیتونی بری از همین بر برو شمال برم شمال گاره اینجا نمیتونه برگره این باید درخیص کنی گاز بدی این هم پیچ و خم یا جا دارم نمیشنست بودم ما پایین فقط یه جایی پیدا کنم اترا کنیم بشینیم دیگه. چیکار کنیم البته با این شمالم نمیتونی بری خب گفتم چرا؟ گفتش که ما دانشجو بودیم گفت این بعضث از خیلی تنده ترمز بگیری خاکی جادم خاکی بوده میری تا داره؟ سر میخوری میری تع داره گفتم آقا شوخی نکن گفت بمونید همین جا بمونید تا فردا هوا چیز بشه دوباره مثلا مه این این ها مثلا مه نیست و مثلا حتش بارون هم نگیره و نمیدونم او وسط جنگل هرچی هر چی میتونستیم خوردیم تموم شد رفت دیگه هم دیگه من که بخوریم دیگه چیزی نمونده دیگه ما اونجا درخواست کردیم از ملتی که کاپشن یه خورده تنشون هوا سرد چطوری چیزایی مثل کاپشن که نه چی میگن این آره بار بارونی اینا تنشون که مثلا رنگای چیز و شاد تنشون بود سر جههای یه بار پیاده جاده رفتم بالا اینا همه سر رو گذاشتم اونجا <تصفيق> اینا رو که می‌دیدم می‌دونستم سبز دست راست بود اون یکی سبز چپ بود بالاخره اومدیم بالا میخوام بگم علای این جوریه به شدت فضا قوارالود چون هر سر روشن نیست وضعیت جنگی دشمن هر لحظه ممکنه فرمونه بچنه جنگ برای بقاه هم ما داریم می‌جنگیم برای بقا هم اسرائیل بدونید تازه ما بخشی از یه پازل کلانتر هستیم اینه نه آخر زمان ها احتمالاً بشه دو جلسه سه جلسه چهار جلسه نمیدونم من شروع میکنم بسیار هم جذاب خواهد بود خب البته این جلسه من چون مجبورم بیس و رو بگم خیلی انتظار نمیشه اما تمام سعیه هم میکنم چون مجبورم بخش سیاسیشو رو نظام جلوتر چون پاسخ اسرائیل و اینار داشتی احتمان باز پاسخ ما خدمت شما عارض بشم که این الانم وگرنه کلی ریشه‌های تاریخی مهم رو بعد بگم یا روند‌های رو بعد توضیح بدم اونا خیلی بحث‌های جدید و خوبی حالا دوستانی که دارم میبینن بعد بعدا اگر فرصت شد آلا ان عمری باقی بود بیان شد نتونستن حضوری هم باشن دانلود کنن ببینن بر میگم آخر روز زمان رو نیست نه الزامن که بگم آقا یعنی آقا امام زمان داریم این ان شاء خب نمیشه وقت که ما توقیط کار درست نیستش یک مساله ژئوپلیتیک تعقید در نظامات ارسال کالا در دنیا داره صورت میگیره. ایجاد کریدورهای جدید که راج کوریدورها دیدید دو سه جلسه جدا ارسال. برای هم میگه اینا مفصل. من راج کریدورها نمیخوام حرف بزنم. پیمان ابراهیم، آثار اقتصادی نظامی که داره. این مسئله ژئوپلیتیکش فقط یه بخش. استراتژیکش فقط یه بخش. ژئواکونومیکش فقط یه بخش. مسئله اقتصادی ظهور قدرت‌های جدید. ارزهای دیجیتال. این دهه این دهه ایناست. انقدر متغیر ها زیادن که نمیتونی خوب بررسی کنید کار خیلی پیچیده و سختیه انرژی، مسئله انرژی های تجدید پذیر مثلا یکی از اعضای اصلی سهامداران بلک راک که اصلا بلک راک رو را باید جلسه فقط باز بکنن براتون چیه شرکت بلک راک نصف این فتنهای های کوری زمین کار ایناست اصلا جنگ اوکراین صفر تا ست کار ایناست رسما پارسال 2023 در جمع سهامداران خوش گفت ماجرای جنگ اوکراین استفاده از ارزهای دیجیتال را فراگیرتر خواهد کرد یعنی یکی از آثار و اهداف جنگ اوکراین بوده و انرژی های تجدید پذیر را چرا چون دنیا فهمیده که نباید به نفت ایران، نفت عربستان، نفت روسیه، گاز روسیه وابسته بشه باید برام به سمت انرژی تجبه خزینه‌ش هم بدم خب این یه دنیای جدیدیه دنیایی که تو اون خیلی دیگه شاید مثلا انرژی شما شاید اینجوری پیش بره اینجوری میگن اگر موفق بشن انرژی شما خواهان نداره آ کجا خب پولدار آماده ایران وقتی میگم ایران آماده ایران عربستان روسیه ونزوئلا و همه کشور نفخیز این خودش یه دنیاست خداوادادون برسه با این برخی از عزیزان از منظر سیاسی دعوای بین چپ ها و راستگرایان افراطی اونا که نگاه ملی دارن اونا که دیگه به نتیجه رسیدن باید خیلی از چیزها رو در کشور خودشون تولید کنن چون ممکنه یا یه کرونا اتفاق افتت چون ممکنه یا یه جنگ اوکراین اتفاق افتت چون ممکنه پس کالاهای استراتژیک باید در کشور خود تولید بشن به این بحث جدیدی است برای خیلی از این زنجیره ارزش اقتصادی باید داره پاره میشه فلان کالایی که میرفت اصلا بل میشد در چین دیگه باید مثلا در خود آمریکا اصلا بل بشه خبونه که تو چینه چی میشه اونایی که قرار بیکار بشن چی میشه دعوای بین گلوبالیست ها و ملیگراها مسئله چهارم از منظر فرهنگی اجتماعی به این دقت کنید اصلا اینا ها نفهمیدن مسئله اینترنت جهانی که داره میاد و اخیراً شما دیدید تقریبا یه دو ماهه تبلیغاتش در شبکه‌های اجتماعی خودمون چقدر پر رنگ هی دارن نصبش نشون میدن برج میلادو نشون میدن میگن ببین اینجاست همین الان تست سرعت برات میگیرن و اینا متوجه نیستین اینا فهمیدن مثلا آ جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه فیلتر کنه. مساله ثانویه است. که زندگی کنفیکون خواهد شد. یعنی چی؟ من فکر می‌کنم خاطرشو. بزنیم از چند تا مثال براتون بزنم. یک الان شما تلویزیون می‌گیرید اینام ان اینچ، ام اینچ، همه هم می بزرگتر. بعد تلویزیون‌های صدا کانال تلویزیون صدا و سیما کنی نباکنی هر چی بزرگتر این تصاویر بی کیفیت بیشتر بدیشو نشون میده پیکسل پیکسل میشه آره خب چه قصد دوستای ما برای ناماده است ببین اصلا من در مورد اینترنت اصلا شب نمیونم متوجه میشی الان در اروپا که تلویزیون ملیشون رو نگونه میکنه تموم شد رفت های یوتیوب میخواد با کیفیت بنسن اعصابش خورد میشه اینو بی کیفیت میبینه دیگه وقت نداری چیزی لایف ببینه لزومی نداره لایو ببینه عملاً تلویزیون ها دارن میشن آی یعنی اون استوریج میشه ذخیره میشه تو بعداً میریم نگاه کنی حتی اخبار تو تمام شبکه ها دارن کانال میزنن تو یوتیوب هم سالوم. الان مردم چقدر از تلویزیون خود مثلا سریال میبینن چقدر تو هم وی او ها دارن میبینن حالا فرض کن اینترنتی میخری 8 واحد ده واحد بلند میشن مثلا یه با هم دیگه پولی میدن اینترنت میگیرن اینترنت داری دیگه رفقه هم میگفت بچه چه بودیم رفتیم سگاه کرایه کردیم سگاه دو سه نصف شب دیگه خسته میشدیم بعد میخوابیدیم میگفت اما اونو تا صبح روشن میذاشتیم چون پولش رو داده بودیم حکاعت همین اون دیگه اصلا وابسته میشه اصلا رابطه حاکمیت ها از طریق رسانه با مردمشون قطع میشه بله فضای گیم که اصلا انقدر یه دنیای جدید دیگه آقا دنیای جدید ما رو زرفته بودیم ساترا این مرکز که اینا میشه یک ای اتاق مانیتورینگی دارن اون برنامه‌گونا خدا نمی‌دونی همه‌تون رو می‌بینن اینا که داشتن گیم بازی میکردن و خب دوربین گذاشته بودن آره ملت هم نگاه می‌کردن و دونیشن جمع می‌کردن آقا پول بدیم من یه صندلی خوب بخرم براتون خوب بازی کنم پول بدید ببینم مانیتور خوب بخرم هر کدوم این اینو بزرگش کنم میآورد جلو <تصفح> ما اینجا می‌دیم من میشناختم میگم این این خیلی فوش میده اینو بیارش جلو ناراحت میشد و... یه دونی اونجوری داره, داره اون تو زندگی میکنه عصری که توش هوش مصنوعی اومده و کنفیکون کرده الان به خودت خیلی از مشاقل به این خواهن رفت خیلی از مشاغل. من هر جایی رو میخوام بگم نه این میمونه با اثرش رو بس اونم می‌بینم حالا 100 درصد نه می‌بینم 90 درصد 70 درصد 80 درصد 20 درصد باز هم اثر تو خب این اقتصاد آینده چیه بچه چه درسی باید بخونه و تو فرزند تو دقیقاً دست اوست همونی که بخش نظامیش امروز سرنقاحت کرده بهش میگی سهیونیستایی که آدم میکشن این بخش گلدرشتش خدا گذاشته ببینی اونا احمقان دارن اینجوری کشدار میکنن میدونی چرا چون لو میدن خودشو این بخش گلدرشتش رو ببینی که بدونید چه جاهای دیگه دارن بچاتون نابود میکنن منتها از حیث جنگ نرم و تو متوجه نیستی درگیرت نمیکنه خیلی پیچیده در پیش نمیشه باش مقابله کرد بهتون بگم نمیشه باش مقابله کرد این عصر از کرونا شروع شد و کرونا هم کار خودشون بود ما ما میگفتیم آه اینا توان تو تاس فیلانند الان دیگه تونتون مقاله میدن خودشون سبک زندگی ها عوض کرد قیلی شده ضرورتش هم بین رفت این برهم ریختگی و تلاتم فرهنگی آمیزش فرهنگی جدید به وجود خواهد بود و التقات شکل خواهد گرفت. آدمایی که از این سر و سر دنیا با هم ارتباط دارن به واسطه هوش مصنوعی لازم نیست زبان بری یاد بگیری. من منتظر باشه در مؤسسه امصاف بخش هوش مصنوعی محصولی به زودی نمایی خواهد شد برای اولین بار در کشور ان با اون خواهید فهمید چه دنیای جذاب البته ترسناکی پشت روز هم خیلی کار ما هم واقعا ترسناک چی نگیم جلوشو میگیرن ما میدونیم داریم کار میکنیم ما به خدا یعنی هر سالو میخوایم بگیریم میان تلفن میزنن حمله رو شروع میکنن جنگ جهانی داریم برای یه سالن کلوای کردن از جمله همینجا بلاخره شست جا باید نامه بیاری فلان بلاخره ها لطف کردن همکاری کردن دستشون دارم اما تا با تمام توان ول نمی کنن. هنوز موندن در گذشته برخز آقای تغییر قدرت در جهان مثلا فرنگ اشتماعی پس گفتم الژی بی تی الان داره همچی اضافه می شده یه الژی بی تی دو باره از ای بی سی دی همیزان اضافه می کنن جنسیاتوی از این امی سایت قدیمی رفت می گفت میل مرد یا زنی؟ الان می بینی؟ ای بی سی دی ای اف جی بزنی تو اینترنت به چیه؟ خودت تو نگاه کنیم این اونا هستی نیستی <نصدق> <مدخل jadi> آره تغییر قدرت در جهان ظهور زورز... و بروز قدرت های اقتصادی ظهور و بروز قدرت های نظامی جدید کسی ایران ایران قدرت نظامی داره اما نه این حد می گفتن ایران زمینی میری میگیره ایران قدرت چریکی بالایی داره به خاطر الگوهایی که ما تو جنگ دو دفاع مقدس خودم کشف کردیم و اونا توسعه دادیم به زور خدا آمد گفت توسعه بدید به زور خدا بیا توسعه بدیم ما یه جای ما نمی خواستیم خدا میینه عجب اصلا انتکر او شگن فواب لکم یه لحظه به خود اومدیم با داعش ما ارتش مقاومت رو ساختیم به خودمون بود اینجوری نمی ساختیم به خاطر ماجرای عراق و سوریه از پاکستان از شمال اقیانوس هند ما تا دریای مدیترانه رو یک ارتش رو زمین دارم که هیچ کسی یه جزبا نداره و آخرش ترشت هم زمین مهمه الان یعنی اسرائیلی هواری ما با موقع در میرن زمینی صدمت متن نمیتونم بیان تو ظهور قدرت های جدید جنگ های محتمل پیش رو جنگ در پیشه هر کسی قدرت نظامی داشته باشه تو این توازن های اقتصادی قدرت نظامی تون رو می جلو باید بلد بشه از این خوب استفاده کنی از این فرصت استفاده کنی پدیده های آب و هوایی آقا این دیگه مثل اروپایی ها جدی جدیه جدیه های آب و هوایی توفان های خرشیدی که در راه هست مثلا پجوهش روی شده من این ها خواهم گفته پدیده های زمین شناسی پیدا آب هوایی چ میگه قبل زهور؟ تو اون سال ظهور میگن بارون خیلی میباره چی میشه که بارون خیلی میباره یه تغییراتی پیش آمده اصلا جایی هست توی مملکت با نگاه آخر و زمانی رو چک کنه؟ نه ما می رو انجام میده میگن چرا تو همه کار دخالت میکنی؟ ببخشید. به شما انجام بده ما انجام ده نمیکنه اصلا شورشون نمیکشه ب. خدا از اون میش میگی چی میگی؟ بحث عوض میکن میره تو فایده های زمین شناسی بسیار بسیار مهمه شما مثلا اصلا با خود نمیپرسی چرا فلان سیاستمدار روسیه میگه ما باید با انداختن یک بمب اتم بر روی گوسل فلانجا در آمریکا به آمریکا بفهمونیم کتنا تو نشنیدی؟ نشد درگیری اوکراین روسیه میگه که آقا من فلان سیاستمدار روس میگه که ما اونجا با یه بمب اتم گسل فعال میگه گسل فعال بشه چی میشه عصر یخ مای عظیمی در اونجا زیر زمین افتاده که آخرین باید شده باید کنم شیست هزار سال پیش فوران کرده چیزی نیست آمریکای شمالی رو یک متر خاکستر فقط میپشونه یه شب آمریکا نابود میشه کانادا آمریکا هم فاطع. اصلا با اینه کار میشه اینکه آخر زمان آمریکایی خوش دور نگاه داشتون دور خوشحاله میگه همینجا جنگ است به من نمیرسد جنگ جهانی دوم وایستا خدا کارت داره بارها عرض کردم باز هم عرض کنم آمریکا به شیوهی هالیوودی نابود خواهش خب ببینید شما خب به شیوه هالیوودی اینا خیلی دوست دارن این چیزها رو خدا مود مد... چرا اینجوری میگی اول اگه سر نکات دارم دوم من سنت الهی رو میشناسم از همونجایی که میشه همونجوری میزنه تو خودمو همونجا خب بچا سر میبرید فران یه بچه را سر نبود، همون بابشودار بود. اینجوریه دیگه. خود رو از همونجا جا که فکرشون رو مسئله هفتم پیشرفت برخی علوم بسیار جدی است و همه چی رو متفاوت خواهیم. مثال همین هوش مصنوعی که زدم همه مشاغل قرار تغییر کن. یه زمانی شما مثلا گفته آقا این چند صد تا هزار تا تاکسی تلفنی تو تهران میافتین ملت اونجا مثلا نشسن زمین زده اینا آ اینا جمع میشه هیچ چیز با گوشیشون اینا تاکسی فاستن. بابا چجوری میفهمیم کجا باید بیاد چجوری باید بیاد نه میفهمه همش هم مسیر رو اصلا موجب صرف جویی میشه کلی شغل تولید میکنه نمیدونم فلان اولش هم یادتین روان تاکسی میرفتن دفتر اسنپو زدن در کوشن <تصار> <تصار> <كتصار> خودشون از اونها نصب کردن نمیتونیم مقاومت کنی پیوجو لو بچ شما می نویس رهبری می ده شامل کنم آقا تو این عرصه هوش مصنوعی داریم عقب میمونیم و بید. به خدا بعضی از اینا اگر فرق هوش مصنوعی با ماشین حساب بدونه هوش مصنوعی فلسفه داره هوش مصنوعی فقه داره هوش مصنوعی آینده داره ما الان بحثا که خودمون تو دفتر خودمون الان چند سال راجع به هوش مصنوعی شروع کردیم داریم کار میکنیم اصلا آقا این خدا رو خواهد پرستید یا نه این خدا را به پرستش خدا رسید به, ف... به تعقل خواهد رسید بعد این موجودی که هرمون دیگه نداره مثل من شما حب و بغز نداره بعد احکام این چیه جزید دارید دیتابستشو شیفتیلیت کنی کشتیش <تص> قتل، کفاره داره چیه پیچیده ای در پیش رو اینام به سرعت اتفاق خواهد و همه میگم یه دهه یک دهه یا علم ژنتیک آقا الان صحبت این پلنت های که الان محصوله فکر نکنیم که قراره بشه الان محصوله فعلا خود گرونه یا به صورت کپ کلا رو سرت میذاری یا زیر پوست روی جمجامه قرار میگیره یا بسیار باریک رو میتونی توی مغز قرار میگیره امواج الکترون مغز شما رو میگیره بدونی که حرف بزنی بدونی که اشاره بکنی اونو میگیره میفرسته برای شما فکر میکنی به چیزی اون کار رو انجام میشه مثلا فکر میکنی چرا خاموش رو چرا خاموش فکر میکنی ولوم تلویزیون زیاد میشه فکر میکنی جواب رو میدی ببین شما الان یه درکی از این آبداری تو ذهن تو مغزه درسته این آب حالا ظهور و بروزش یا این شکل نشون میدم حالا اگه نابینا بودید میگفتم آب ترک بود میگفتم سو عرب بود میگفتم ما نمیدونم واتر چه هر چی این که چه شکلی این رو نشون میدیم رو کاغذ بنویسیم نقاشیشو بکشیم مثلا مهم نیست برای فهم بهتره به تمام زبان‌های دنیا اگه الان تشنه بشی اینا این نشون میدین چی میکنی آب میارن برات <تص> زبانش بلد نباش. حالا قراره به آب فکر کنی آب فکر کنی او هم اگر داشته باشه میفهمه آب میخوای با هم حرف میزنید بدون یک کلمه اینا در پیشه خیلی جذابه ها آره خیلی خوبه همه از این میزن راحت چی چوچی زبان مبان همه جم حافظم هم اگه داشته باشه حافظ کل قرآن هم هستی یا حافظه جانبی میتونید داشته باشی اکسترنال یا مغز اکسترنال تازه چقدر مغزت دارین هفتم 4 گیگ خریدم این دنیا ار اس سی سرعت بالا اصلا فکرش هم نکن وسط چیز مثلا شارژش تموم میشه هیچ دیگه تاموش شد یارو اینا در پشت خب این چی خب این نکات این ور داره نکاتش چیه این وریش آره دیگه اینا نهایت دست کیه اونی که میتونه با یه دکمه همه رو بخوابونه همه رو بیدار کنه دستور و هر... ترشی و هرمونه خواب بده دستی کی میخواد بیفت این دنیا آماده اید؟ گفتم جذاب اما ترسناک آره، تا یه سال دو سال دیگه امیدانشم شروع شده باید بچه ها من چینی حرف میزنم بیکار میشن همجایی با حوش مصنوعی و هم دارن بعضی موقع اینا تولید میکنن اصلا اون سخنانه اون موقعم هم نیست میگم یعنی این چی الان میگه که هیچی دیگه صورت رو گذاشتیم لیپسینگ تو عوض کردیم گفتم من اینجا این حرف رو نزدم خب حالا هر کسی میتونه از کجا این اصالت سنجی خواهد شد دنیای در پیش هست با آخر زمان خوش آمدید محکم کمربنده رو ببندید مسئله هشتم یه سرفصل چقدرم جذاب و جالب در رابطه با پیشگوی ها پیشگوی یهود چی میدم تمام شدنه خودشون یه بخشاش دون پاشیدم واسه گفتم پیشگوی های خودمون چی میگه پیشگوی بردارن اهل سنت چی میگه چرا باید امام حسین شناسانده بشه به مردم دنیا لزومش رو خواهیم فهمید همین الان سر ماجرا قزه قشم می‌بینیم امام حسینی ها فرد دارن کل دنیا داره میفهمه خب اون که داره خون میده اینم که داره شهید میشه بر دفاع از اون کسی که خون داده بر اون سنی فلسطینی این بخش بی رسانه کجاست بگه اینا فرد دارن و چه فرقی دارن حویس حسینو کی قرار را جا بندازه بر اینا هیچ بحث های بسیار مهم از منظر نجومی یه سرفصل شده هست یه روز ما گفتیم آقا من یه نکاتی هست در مورد نجوم اگه بگم مردم تحملی شنیدنشون ندارن مثلا آقا میدونیش ماه دور زنی میچخوز اینا خورشید پشتش بماست فرونه ها <تصفيق> اینا رو میخوای بری بگی کرده هایی که صهیونیستا از علم هیئت و تنظیم میبرن اوه دنیای جداییه خیلی اینقدر که اتفاقات عجیب اتفاقات اینا رقم میزنن با یک سری اتفاقات نجومی جور است که اصلا بعضی موقع پیش بینی میشه کرد. نه که پیشبینی قیبا نه یعنی میدونیم مثلا فرض کن یه نفری دیوانهی مثلا تو فقط تو قمار اقربی کاریو میکنه و میگه اتومدن همین دو سه روز این کار رو انجام بده بعضا پیش آمده که کار میخواستم که انجام نهدن تا اون مقارنه شکل بگیره بعد انجام بده یه اشاره کردم مثلا ما یک مقارنهی داریم بین زحل و مشتری که چشم انسان اون این دو تا سیاره یکی کنار همدیگه ستاره جدید میدیده نمیفهمه شما مثلا کهکشان راه شیری یه دونه ستاره فقط میبینید خودش برای خودش یه راه شیریه میلیون ها میلیون ستاره هم شما اینجا یه دونه میبینید اینا چون نزدیک به هم میشدن یه ستاره میدیده را. این مثلا اون اندازه مقایسنتون اندازه حالا این بگم وقتش بگم براتون یه 400 سال یه بار روخ میده و دو سال دو سال هم روخ میده سه سال،, سه سال، چهار سال، پنج سال، ده سال اما اون که انقدر نزدیک بشن به هم هر بار این اتفاق افتاده قدرت در دنیا تغییر کرده جریان قدرت در دنیا اون مقارنه 20-20 سند -20 اتفاق افتاد مقارنه اصلیه که هر 800 سال یه باره اون 800 ساله اتفاق افتاد نه میچرخه دیگه خود به خود نیستش که ای بله اینا بهشون مهمه بحثایی از منظر خود سهیونیستا چه نگاهی به دنیا دارن؟ اینا باید بیان بشه کابالیستا چی میگن؟ مثلا شما میگه چرا بچه میکشن اینا؟ اینا معتقدن به مولک یکی از شیاطینه ملک یا مولک که اینا معتقدن میگن که از بوی کباب گوشت انسان خوشش میاد. بعد آدم سوزون دراش. تقدیم کودک کشی برای اینها برای اینکه او نظر کنه به اینا کمک کنن. این کابالیستا هنوزم هم هست. همین سرفصل مهم میه. راجب اینو قرار حرف بزنه. پس عبارت آخر و زمان از این حیث گفته میشه پیچ بزرگی که دوره زمانی که با کرونا شروع شد اما آن که مربوط به اسرائیل یعنی من عباده فقط سیاسی شو برای شما نظامی شو کوتاه تو این جلسه بخوام بگم همه برمیگرده به سخنرانی سال گذشته نتانیاهو در سازمان ملل که از اون کوریدوره عرب مید توسعه ای راجب کریدور مفصل صحبت کردم هر کی گوش نکرد اون گوش کنه که هند از بندر بنبایی امارات عربستان اردن اسرائیل و یونان این کریدور که نامی خوان بسازه مقدمه این چیه طرح معروف امبلی قرن یا طرح ابراهیم موافقه ابراهیم چرا ما ابراهیم؟ که ما فرزندان ازت ابراهیمیم همه هم. حالا هندیا چجوری چجور برچه ابراهیم این میگه نمیگه نمیم. یعنی اعراب و اسرائیل برای این اسرائیل در منطقه بماند باید نان کشورهای عربی اقتصادشون گره بخور به رژیم و رژیم قرار بشه حابه و دروازه اقتصادی جهان از این طرف انرژی کالا ها به سمت تو اروپا بره از اون و تکنولوژی بیاد. مثلا اگر این رو بدانید میفهمید که رژیم برای این طراحی انجام داده بود چیکار کرده بود؟ میخواست یه سیلیکون ولی در شمال اسرائیل بسازه و شرکت های حوزه تکنولوژی و استارتاپ‌ها تاپ ها رو هم رو برده بود اونجا مستقر کرده بود. خب میشهال رو بفهمید هزببللو لبنان چیکار کرده با اینا؟ شماگه یه مشک زد موشک چیه؟ ده سال برنامهریزیشون هوا کرد 6 هزار نفر ها اونجا در رفتن تمام اون شرکت درش تخته شد یک سال سولار قف کردن رفتن برگشتن همون جایی که مال اونجا بودن شهر نعوم عربستان سعودی چقدر سروز؟ 500 میلیارد دلار لات قچه کنید کوچی میشه 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری شهر نعوم که قرار بود از این تکنولوژی که در اسرائیل تولید می شود استفاده کند هتل هایی که ربات ها قرار مثلا از شما پذیرایی کنند یه بخشش هم ساختن دیگه جستجو جو کنید که پیدا کنید هست امسال اون که شروع کرد اون رو اعلام کرد برگشت چند روز بعدش طوفان الاقصا بود همه چیز رو ریخ بهم همه چیز رو بهم. شاید بعضی بگید اصلا طوفان الاقصا کار خودشون بوده تررایی کرده بودن که چی؟ ای داشته باشند که مسئله رو حل کنن اون سرمایه گذاره هندیه اون فلان اون با خودش میگه که آقا سب کن مادامی که تو اونجا رو حل نکردی همچین اتفاقی من نمیشه رقم رو بیا اون رو حلش کن تهشینه دیگه درسته فرض این او اوکی حتی اگر فرضتون بر اینه یعنی تو دستگاه تصمیم گیری اونجا مثلا تاثیر گذاشته حمله کرد نابود کرده خودشو حتی به اینو بفر... بپذیریم میگیم قبول داری ما به فرض دلیلش رو حرض میکن خدمتش. امسال یه کار دیگه کرد دو تا نقشه ها بالا دو جریان ما رو جریان رحمت و برکت و جریان مسیبت رئیس مسیبت ما بودیم رئیس رحمت و برکت هم خودش بود یعنی خاک تو سرم کشور اسلامی که ببینه یه موجود نجسی مثل نیتانیو و اکسور و اصلا عربستان و امارات و اینا رو برشت و اردن و اردن و نشون میده مثلا اینا جریان شبکه رحمت توی منطقه منطق و اشاره کرد که این اگر برقرار بشه و بیاید همه با هم به کل مردم دنیا گفت گفت بیاید این جریان نکبت کرس نفرین رو کنترلش بکنیم تا بتونیم یه جهان خوب بسازیم از اقیانوس هند تا مدیترانه ما یک مسیر جدید میخوایم درست کن چون اینا خیلی سعی کردن ایران، عراق، سوریه و با وصل با نشن جادای زمینی رو میزدن چه چه الان میخواین این طرف ایران خطرناکه ایران با متحدان شابای بینومللی رو بسته ببینید من داره چیکار میکنه شما نمیتونید باید بیاری سمت ما حتما اینجا نظام برای این کوریدور باید برنامه داشته باشد برای کوریدور اونا برای اول تا آخر کوریدوره باید برنامه داشته باشه اونها هم میدونن تو برای اونا برنامه میتونی داشته باشه برای همون یک کاری میکنن تو رو کنند. کنن مثلاً اون دروازه ارزی تو را امارات قرار میدن که تو خودت نتونی علیه امارات کاری کنی کالاهاتو از اونجا وارد میکنی که نتونی علیه امارات کاری کن متوجه شدید؟ یعنی این نیست شده تو احمق طرف باشی که او داره دائم تر راهی میکن بعد این اشاره نتانیو که ایران می‌خواد افراطی‌گری را به غرب و آسیا و ورای آن گسترش داده برای همین است که موشک بالستیک و چه جو موشک‌سازی ما ام ربط ندون طرح ابراهیم سرمایه گذاری مشترک و صلح این آدیسازی روابط اقتصادی دو طرف رو تقویت می‌کنه نتانیو داره و برای منطقه مفید است انرژی هوش مصنوعی به همین کریدور داره ربط می‌ده مینه که از این قرار مثلا انرژی بره از اون ور قرار فیبر نوری کشیده بشه حوش مصنوعی آب همیشه اسم میبره در این حوضه میتونیم با عربستان همکاری کنیم این یک آشتی تاریخی میان اسرائیل و کشورهای عرب اسلام و یهودیت خواهد بود به عنوان نخست وزیر اسرائیل تمام تلاشم رو تعقیقا به کار میگیرم نباید از این فرصت بگذاریم نباید از این فرصت بگذاریم یعنی همه میدونن این پنجره باز شده واسه سریع مهمترین تصمیمات گرفته بشه بعد با, تب... با اشاره به این محکومیتی که تو جهانی داره صورت میگیره این جنایات هاش چی میگه میگه منظوی کردن تنها کشور یهودی مایع ننگ سازمان ملل است این سازمان زمانی مورد احترام بود اما این سازمان حالا برای فلسطینیان به محلی تبدیل شده تا یهود ستیزی خود را به اینجا بیاورند یک اکثریتی وجود دارد در اینجا که به هر بحانه میخوان ما را تضعیف کنند اینجا اینا پور روان اینجا هر ادعای دروغی یک اکثریت را حامی پیدا میکنه. در یک دهه گذشته اینش جالبه. این اعتراف, اعتراف خوبیه در یک دهه گذشته یعنی یک نفر نمیت تو این مملکت تو این اگه بوده بگید من خبر ندارم شدم بوده بیاد سخنرانی نتانیاهو قشنگ پخش کنه برای مردم دیگه نمیتون دیگه جلو اونو بگیری که پخش کن تحلیل کن براش برنامه امشب ساعت 9 شب تحلیل صحبت های نتانیاهو در سازمان قشنگ بذا کلمه کلمش داشت رو کن. این دیگه ترس داره در یک دهه گذشته قطنامه های علیه اسرائیل در مجمع عمومی مجمع اون سازمانون که کشور ها دیان نه اون شورایل ملعون از قطنامه علیه تمامی جهان بیشتر بوده از 2014 سازمان ملل اسرائیل ها 174 بار محکوم کرده است نه نتانویون میگه یعنی 2014 تا 20-24 تو ده سال چقدر؟ سد و و بار اسرائیل محکوم شده است. همه کشورهای دیگر روی هم هفتاد و سه بار محکوم شده ما چند تو تو دنیا داریم همه رو یه طرف که باز بخش قابل توجه از اون محکومیت باز رفیقای هم پدر سوختن باز مثل هم و اینا خودش داره اعتراف میکنه بله اثری هم داشته نه اسرائیل داره میتازه یکی از ویژگی حضرت همینه میگه اینه ها و ابنیت شرک و نفاق کجاست اون کسی که منهدم میکنه این بناهای دروغ و نفاق رو این ساختارهایی که درست کردید که توش فقط خودتون پیروز در مید علیه همه دنیا میتونن تصمیم بگیرن خودشون یک نفر میتونن جلو کل دنیا وایست حق به تو داره بعد جالبه اون میگه این ریاکاریست، این مسخره است، استاندارد دوگانه است. <تصفيق> نتانیه ها داره میگه خیلی پور روان اینا. همینی بیا مردم بگو مردم ها از سبا. لجشون میرستن بگوید چه باید این پور رو باشه نرفار بزنه. حالا اینه شنیدید؟ بعد ببینید رهبری چی میفهد. سه خط از من از سایتشون برداشتم هم نماز جمعه خیلی مهمه. تکیه آمریکا و همدستانش بر حفظ امنیت رژیم قاصب پوششی برای سیاست مهلک تبدیل رژیم به ابزار آنان برای در اختیار گرفتن همه منابع این منطقه است وقتی اسرائیل بشه شاهاب میگه بدید نفتتون رو من میفروشم ابزاره تکنولوژی مدرن رو از من بگیرید همه چی دست اسرائیل میفته. یعنی حیات و ممات مافت دستو به استفاده از آن در درگیری‌های بزرگ جهانی است. آنان تبدیل رژیم به دروازه صادرات انرژی از منطقه به جهان غرب و واردات کالا و فناوری از غرب به منطقه است. و این یعنی تضمین موجودیت رژیم قاسب و وابسته کل منطقه به آن. رفتار صفاکانه و بی‌مهابانه رژیم با مبارزان ناشی از طمع به چنین وضعی است. میگه مینی چرا اینجوری قتل انجام میده نمی ترسه؟ میگه ولش کن اینو میخوام به دست بیارم میارزه یا دلیلش اینه این واقعیت به ما تفهیم میکند که هر ضربه به رژیم از سوی هر کس و هر مجموعه خدمت به کل منطقه بلکه به کل انسانیت دو بشریت است یعنی هر کسی هر جا میتونه باید منافع رژیم سی این رسی بزن هر کسی هر جای هر کاریت دستش برمیزن هر شرکتی رو که میدید مال صحیح نویست هست منافش منافعش مطمئن باید بود دیگه حرف از کسیست که دیگه نمیشه دوتر داشتیم آدمایی که باور کنید بیانید سر همین هم قصه درست کنه. فلان شرکتی نرمافزار رو تولید میکنه و مال خودت هفتم اکتبر از نظر بنده اینه قصه ای که قرار رو چند وقت دیگه اتفاق بیفته و اسرائیل با هفتاد درصد توان شروع کرد متشدید یعنی قطع به یقین این کار رو بکن فکر کردیم مثلا رژیم سعیونیستی نیاز به توجیه داره برای جنایت هاش مثلا آه. یه گروهی براش دوتا راکت میزدن دفعه قبل حزب الله دو تا اسیر گرفت جنگ سوسرزه بعد بعدا تو اسناد فاش شد که اسرائیل قصد داشته این کارو بکنه دوباره خیلی جالبه آمریکایی‌ها و اسرائیل ها میگن میگن همین فرصت بهترین فرصت استفاده کن بعدا این اسنادش لو رفت آمریکایی به اسرائیل میگه همین فرصت بس اینو آمریکا را از اسرائیل تفکیک نکنید پشت همه اینا خدامریکاست آمریکا رضایت کامل از تمام این اتفاقات داره و اینا به میتونه جلوی رو بگیره این جنگ 33 روزه که ناپخته شروع کردن همین هفت دکروم همینجور بود اینا برنامه رو قطعا داشتن میگفتن اقا دو نفر اسیر گرفتید همونجوری که لبنان رو شخم زدن 2006 همین برای این کارو میکرد. یه موشک پرد میشد مثلا میخورد یکی از سیاستمدار مدار اینا رو میکشد الکنی نشون میدادن میدادن خودشون انقدر از این کار کردن انقدر آدم کشتن انداختن اوتو تو تا،, تا بچه کشته شده من با دارها حمله کنم شخم میزنم شما نمیدنید در ماجرای 7 دکتور چرا این اسیرایی اص... که داشتن می‌بردن و اینو خودشون می‌کشتن می‌خواستن توجه بهتری داشته باشن دو اینا یه استراتژی دارن با این که میگن که کشته برای ما بهتر از اسیره که دست دشمن باشه بهتره باید مبادله کنیم به خودشون رحم نمی‌کنه میخوام اینجوری منظورم اینه خودشونو می‌کشن چه فرسه کسی؟ ایران و محور مقاومت یعنی رهبری ایران ببین الان سه تا کشور اصلا هند اینا آدم حساب نمیکنن این همه جمعیت این همه نه اون هم روحیه و اون جن تمدنی در هندیان نیست چند صده اینا فقط تحت فرمان ما بودن زبانشون فارسی شد اگه اونجا مثلا آدم حسابی میخواستی بگیر با, با کلاسی جنتلمنی آدم حسابی استی بعد فارسی حرف میزدی و فارسی بلد میبودی که این انگلیسیوی ملعون اومدن این آدم حساب میکنی ایران ایرانم هم چرا ایران یک کشور نمیم یعنی ایرانی که الان خاورمیانه دستش این رهبری جبه مقامت با اینه خودش میگه سر مار سر اختا پوس نمیرم چی روسیه چین بقیه برایشون شوخی هم. خیلی جدی نگیرید بریزیل و نمیدونم آفریقای جنوبی و بقیه اعزیم مثلا بریکس و اینا خیلی جدی نیستن اصل همینا. حالا برنامه دارم یه میاد در جنوب ایران رد میشه ایران حصف میشه کامل دو. یه کوریدور که دارن با کشورهای ترک دارن کار میکنن میشه دالان توران و کشورهای توران توران بزرگ رو میخوام بساز من توی یه بخشی از اون پیشگوی یک جلسه بسیار جذاب در مورد یه و معجوج خواهیم داشت که اینا توی پیشگوی اونا هستیش تو آخر ازام برمیگرم براتون توضیح میدم که اینا چند بعد جالب یه توییتی چند وقت پیش دادم که اینا از نظر نجادی سهی نسته مال همون منطقه همینان اینا جز معدود یهودیانی در دنیا هستند که نجادن به حضرت یعقوب نمیرسن اون منطقه با ما میجنگیدن با ما ایرانیا با رومی‌ها هم می ما مسلمان شده بودیم اینها رومیام که مسیحی بودن اینا اومدن یه مذهبی انتخاب بکنن که نه این باشه نه اون باشه اما به اینا کافر و این چیزام نگن رفتن یهودییت رو انتخاب کردن کاملا سیاسی اقوام نیمه وحشی که وقتی تاریخ میخونید کلکوپریتون میریزه بیاری بیاری مثلا چی میکردن اینا مثلا حالا اینا رو همین آماده است مطلب اون تو وقت نمیشه به چنگ ها میگه که شمال دریای سیاه بودن و از همینا بودن میگه تو کاسه سر غذا میخوردن سر تخلیه میکردن تمیزش میکردن بعد هنرورزی هم میکردن کردن رو جمجمه نقاشی می کشدن حکاکی می تو کاسه سر مثلا آب میخوردن غذا می اینها رو اختیار کردن و الا در تحقیق همه شما برای تو تحقیقی تحقیق که صورت گرفته جالبه مثلا این ها یهودیه که در اروپای شرقی مستقر میشن و جریان قدرت در سهیونیزم در دنیا دست ایناست. یهودی سفاردی رو آدم حساب نمیکنن. یهودی خاورمیانه اونا که واقعا از نسل حضرت من اونا مسئولیتی بهشون نمیدن تو اسرائیل. مسئولیت مهم بهشون نمیدن. همه چی دست همین همینان که کوچ کردن رفتن. یکیش پدربزرگ بنیامین نتانیاهم که مال لهستان بوده. اینا همان اقوام خزران. یهودیان خزر حالا به وقتش راجب این توضیح میدم چینی ها روس ها پس دوتا کوریدور یکی پایین باید زده بشه هم بالای ما کوریدور بالا رو مرس کردم بین ایران و روسیه کاملا فاصله میدازم برای همین این تیکه زنگ زور حیثیتی شده این باید تمام بشه بره سر ماجور زنگزور بحث های دیگه هم هست اونام جلوتر براتون میکنم همه هم شد. من بگید من به اندازه که چون دلستان یه ساعت قبل ما هم شروع شد نمیخوام اذیت بشین بین ایران و روسیه این اتفاق میفته بین ایران و چین هم یه بلک هول یک درست کردن طالبان خودشون سلاحا رو بشت دادن بای, بای ما فعلا رفتیم و برنامه دارن برای اونجا هم تا الان ایران افغانستان رو بسیار خوب تونسته مدیریت کنه. این قصه هم که در مورد افغانستانی یا مهاجرت افغانی باز بازگردوندنشون حجومشون همه اینا در اون پازله تحقیق انجام را دیگه که از اکانت های تویتری که معروف این پجوش را انجام میده بخش قابل توجه از قصه که این هشتکو میزدن بایده هشتزار دیویس اسرائیل بودن ایش جالب و با اونا اشتراک داشتن اونا برنامه دارن یک روزی یک جایی مثلا یک تر روزی به افغانستانی صورت بگیره بعد دیگه یه شرری درست بشه مثلا. بعد حکومت طالبانم که غیرتیه به اونام فشار فشار رسانهی که مجروبش واکنشت داده یک بریزن به هم بعد خیلی خوب کرد اون سالی که چار پنج سال پیش بود که بود سه چار سال پیش یوی من خدا اومادم تو سخنرانی محرم گفتم آقا قصه طالبان تا دیروز این بوده از امروز به با بعد باید, باید این بشه چقدر به خود ما حمله کردن آما این آینده رو میدیدیم برای همینه باید دقت کرد بعضی وقتا بعضی از این مطالبات تو زمین دشمن نباشه که اصلا خلافه اصلا یارو تو زمین دشمن میگه بر حقه اصلا میگه از بیخام چینی چینی‌ها روز هم از آنچه که در غزه داره میگذره از نظر سیاسی به نفعشونه روسیه که کلن دوربینه از رو اکران برداشته شد پس هر چین ادامه پیدا بکنه او بدش نمیاد چین هم میدونه دیر زود درگیرش خواهم کرد از این استهلاکی که روسها و جبهه مقاومت داره غرب و مستحلک می کنه واسدادون بقل الان باید رفت نشست به چینی ها باید گفت باید از این رو بدی جریان سیاسی داینامیک و آوانگارد این وظیفش بفهمه بگه آقا اینجوری نیستش که ما خون بدیم ما هزینه بدیم و تو اون بغل راحت باشی. باید بفهمن چین این. امروز امنیت انرژی رو در دنیا امریکایی آوردن با واسطه سودیار انداختن جلو که چینیا اومدن و صد پنج درصد سهام آرامکو خیالشون بشه قیمت انرژی بالا نمیره. چرا چون عربستان رو منافع عربستان و محور و چین رو با هم گره زدن تو این بازی داره صبح تا شب اتفاق میفته اصلا نبینم آق... کسی که بعد اینجا به وقتش بفهمه توی وزاعت خارجه این تصمیم گرفته بشه این سفیر, یه سفیر باید بفرستی که تو این قد و قباره باشه نکی بگم زمان الان مثلا سفری داریم بده ها نه هم بگم این پلنه باید ببینی تو این فضا شما داری گریم میکنی هندیا چرا دارن تو شبکه‌های اجتماعی اینقدر از اسرائیلی‌ها مات می‌کنن به خاطر این بحث کوریدوری شد. چون سر این کوریدور اینا شما را می‌نویسیم اسرائیلی‌ها و هندیا ساینیستها و هندیا دارن دفاع می‌کنن. و حالا شما می‌دونید مثلا حملات موشکی مشکی ما به رژیم ساینیستی چقدر مورد توجه چینیا قرار گرفت؟ 10 میلیون بازدید خو... نماز انتهای نماز رهبری <تص> تو چین. وازی یک کلیپش بود فقط که نماز تموم کردیشون داشت به روک میکنه همین موشک که چطور اونجا وایرال شد دوستانی بودن که حالا چین درس میخونه یکیشون برمن من داد میگفت اینجا اصلا ویچت گرفته درباره زنگ زور چند تا نکته بگم که حالا نگفتم و باید گفته بشه یکی این که روس ها به این طول جزوه ناتوه پیمان نظامی آمریکا یک کلام حتی نگید میگه اصلا آمریکا واقعا آمریکا فقط بحث آن تو دالان تورانی ناتو نیست فقط اینجوری ما اون ناتوش برای بحث بر سر این است که اگر این اتفاق بیفتد این یعنی ترکیه میچسبه به قزاقستان قزاقستان مرز با چین؟ یعنی گسترش ناتو حالا گسترش ناتو به نفع کیه؟ بگید نه شرکت های فروش اسلحه که همشون توسط یک شرکت واحد سرمایه گذار واحد دارنگی کجا؟ باریکالله بلک راک دیگه چی کارها میکنه؟ کارهای دیگه بدی هم میکنه حالا به وقتش میگه این صحیونیزم جهانی یعنی به هیچکی رحمه نمیکنه. یه زمانی حالا این چون تموم شده دیگه رفته و اینا اروپای شرقی کلاشاشون رو میفروختن کشوری که قبلا عضو شوروی بزرگ بودن و پیمان ورشو اومدن بیرون و شروع کردن این طرف چسبیدن به چی؟ ناتو نامردی کرده اینه گسترش دادن خودشون چرا چون انگیزه امنیتی فقط پشتش نه بود انگیزه اقتصادی بود ایناش سلاحای شرقی دیگه و دردشون نمیخورد چون اونا سلاحای سازمان ناتو متفاوت شروع کردن به این دلالای اسلحه در دنیا میگفتن که آقا هرکی کلاش خاص مثلا دو حالا چون یک جایمال اتفاق افتاد یکی از این نزیمثل عکس رو بر من فرستاد آره توی گیریس بود اصلا نه نه نا دیگه به دردمانه میخوره ما و صل ناتو نور استفاده کن ناتو را کجا صود کنی؟ از هم شرکتات بخری. ما انگیزه اقتصادی هم دارد روسیه میخواد ترکیه رو نگه داره ترکیه خوب پ پ مس رو بازی میکنه انصافاً دمش اشنگ داره بازی میکنم اما به شما بگم فقط کافیست زنگ زور تمام بشود یعنی اون راه وصل بشود اردوغان کلده پاست تمام ببین که به تو گفت یعنی اینا این کار رو انجام میدن چرا میگن که نه اردوغان خیلی هم نیست گولن میخواست علیش کودتا کنه این وایستاد فلان این حرفا فاز اسلامگراهی داره و نمیدونم چی باید ظاهر را کنه خرشون از پول بگذره روس ها هم به این خوب analisشون روز ها در ماجرای ارمنستان چیکار کردن وقتی پاشینیان سر کار اومد یادام غربگرا ارمنستانو در جنگ با جمهوری آذربایجان رها کردن گفتن بذا مردم دیگه کتک بخورن تا دیگه به غربگراها رای ندن بفهمن رای گیری گراه... بی عرضهن وطن فروشن غیرت ندارن بش بدیم براشون خوبه دیدید دیگه در دنیا خوب کلن پیش بدیم بریشون آلیه بدیم بر چی میخوایم. بعد تنبیه تنبیه مثلا اینا دارن میگن اگر روسیه جمهوری آذربایجان را میخواهد باید دل جمهوری آزربایی رو را به دست برد اونم چیه؟ به این زنگ زور تن بدهد تمام شد بعد اردوغان کلپا. کل پا، یک جریان امریکایی در اونجا به قدرت میرسه برای ثبت در تاریخ تا مشروب بردین که اون زنگیزو رو بتونن و اینجا باز دوباره دیدید که آقا محکم وایستاد و گفت این اجازه نخواهیم داد مرزم. یعنی ایشون وایستاده داره کارو پیش میبره ها دقیق کنید کدوم به زنگاه ها که مهمترین حرف فقط از دهنشون میاد بیرون یعنی من منتظر مثل چهار تا مسئول دیگه هم بگم برم مثلا میفهمن اینا آقا آقا کنم برم پشت خوشون قایم کنم نکته دیگه اروپایی ها خیلی دوست دارن بعدشون نمیاد که ایران یک درگیری نظامی داشته باشد که موشک هایش را لازم داشته باشد که به کجا ندهد این این مسئله که آفرین دارن ترمی کنن که ایران به روسی موشک ندهد اینا را ملاحظه داشته باشید این دریا هم بهش بگیم دیگه دریای کاسپین نظرین باید یاد بگیریم بگیم همه دنیا دارن اسم درستش رو میگن ما خودمون که اسم خودمونه میدیم دریای خزر خزرها همون اقوام بودن و عجیبه همین علی افرومت تو ایران اعتراض کرد چرا به میگه دریاه مازندان و دریای خزر تو دولت خاتمی اشتباه نکنمتون تصویب کردن که بگیم دریای خزر عجیبه واقعا من اونم یا مثلا سراحتا رحمه میگه آقا اونجا اسمش ابو موسا نیست بوم سوه. وقتی تو میگه ابو یعنی عربی بودنشو پذیرفتی بوم سو یعنی منطقه سبس همینجوری کوچیک کوچیک اسم تغییر میدن بعد من یه چیزی گفتهن. از این سحی نویسا در هنده اما سهمی نویسا جون داره. بعد توییت زد اشتباه نکردم فکر کنم اون بود. نوشته بود که فلسطین یعنی واژه مها... فلسطین ریشش و آریشته بود, بود. من زبان شناسی مدعی ام دیگه تو ریشه خب درشته بود رت با یابس رو با هم بافته بود که فلسطین یعنی مهاجر برای چی بگه ما اصلیم اینا شما یه جای مهاجرت کردید اومدید یه کله قرآنی رو میگم یه تحرفون الکلم عن مواضیعه قرآن خال زده روی چیزی دید تأکید کرد وقت خودتون تلف نکنید همونجا در باز کنید به اونجا جای اینجا آب داره جای دیگه نکن خیلی دقیق بله یاد بگیریم این دریا یا دریا بگیریم دریا یا همین دریا کاسپین کاسپینم هم غزوین هم عراقی ها میرونی هم میگن میخوام برن شمال میرسن اونجا مثلا میگم دریا قزوین. باز دارن دیگه هم داره نه یک تره امریکایی برای مهار سه بزرگ سه جهانی بزرگ سه رقیبی که عضو بریکس عضو شانک یک، روسیه با اوکراین درگیر شد ایران روسیه با شاخ، با تیزی اوکراین، نوک پیکان اوکراین و عقبه ناتوی اروپایی ایران با ناتوی سنی، عین عبارتی که آمی آیلون میگه رئیس وقت شیمبت رئیس اطلاعات داخلی اسرائیل میگه ما از کشورهای سنی یک ناتو خواهیم ساخت در مقابل ایران. این ترابریم همینه. فقط منظره رو نبینید. صراحتن خبرنگار فرانسوی من اینو توییت کردم گذاشتم. داشت چیز دیگر توضیح میداد لو داد. گفت فقط خبرنگار NBC سی و سی ان گفت نمیدونم ان رو فکرم گفت. گفت تونستر راهش دادن ما نمیتونیم بریم تو. و او هم با یک گروه نظامی اماراتی اونجا بوده است. یعنی رسما سربازان اماراتی در غزه دارن مسلمون میکشن اماراتی که قصر در رفت این اینجوری لو رفته شما خیلی وقتا دقت کنین تو این سربازای اسرائیلی نگاهی قیافه‌ها میبینید که اصلا تابلوه یارو چهره شرق آسیا چهره دیدید و چیه این از همینه تا اینجامون کسایی که میخوان دم پر کشته شدن بدن از کشورهای دیگه میرن میگه حزینه ی این کریدور فقط من اسرائیل نمید بدم همه شما باید بدید روی این حساب احتمالاً عربستان همونجا هست کما که در ماجرای حمله موشکی اولی پهبادی موشکی موعدی دیگه از اردن گرفته تا همهشون اشون اومدن دفاع مصر و عربستان و همه اومدن دفاع اونجایی تابلو شد ایران، نوک پیکان، رژیم برای شکست محور مقاومت که خوش برخوش یه ناتوهیه در واقع یعنی چند کشور هم پیمانن و عرب رژیم مثل اکراین نیست براشون بیشتر ارزش داره مهم نیست انتو چقدر کشته بشنید اصلا به درک برای اینا عددهایی که میگن باور نکردیم واقعا عجیب غریبه 500000 600, تا 600000 تا چیز عجیب غریب میگن اصلا برای شما مهم نیست اما چون رژیمه او هم برای خودش دستانی دارد برای همین مراقب آذربایجان باشید آقایون مسئول مراقب جمهوری آذربایجان باشید پروازهایی که از رژیم به جمهوری آذربایجان دارن پروازهای باری کم نیست اینا همینطور دارن تسلیحات انتقال میدن دارن اونجا تبدیل میکنن به یه پایگاهی برای حمله باید مراقب بود بیشتر باید مراقب بود و سوم چین نوک پیکان تایوان بقیه اعضا کره استرالیا ژاپن اینا رو دارم میرن همه راست میدونه افولش شروع شده میدونه دلارش داره کنار گذاشته میشه میدونه همین نکاتی که گفتم تغییرات در دنیا به معنی خیلی جاش به زرر آمریکا است خیلی جاهاش میدونه داره دورش تمام میشه میخواد با زور نظامی به خودشون دادم کی داره حالشو میبره خدا آمریکا سر ماجرا درگیری اوکراین با اروپا الان کی حالشو برده آمریکا یه گلوله خورده نه افسرهای کشورهای عضو ناتو اروپا اروپایی که دارن میرن کشته میشه وابستگی انرژی که به دست آوردن دیگه از روسیه گاز وارد نمیکنن از آمریکا دارن میگیرن سه کلی اصله فروخته. چهار تو بلک راک توضیح میدم براتون. تو بلک راک میگم. هر جا دقت کنید روی این ستا اومد کار کنه. شوروگی های هنگ کنگ. شلوقی های مدل شوروگی مه از هنگ کنگ شروع شد دیگه. اون سخنران اون سالمو برید ببینید یاد یاد میشه قشنگ نشون داد مدل اصلا نعل بنال استپ بای استپ همون اجرا میشد. اون برای چین بود. بعد انقلاب تشرین عراق دقیقا بعد از دیدار عادل عبدالمهدی با شی جین به محض اینکه برای چین جلسه گذاش عراق هوا کردن توش خانم کشته شد سلبریتی کشته شد عین همین قصه مقدسات حمله کرد در همین مدل بعدش در روز دیدار مرحوم آهای رئیسی با شی جین در سمرقند ازبکستان در همان روز 25 شهری برای 1401 همان روز قصه خانم امینی پیش میاد. اگر هم اتفاقیست ما خیلی بد همان روز این اتفاق و چی؟ دیده کشور چه اتفاق داشت؟ باشه به یک گسست اجتماعی شکل گرفت که ترمیم آن چیه؟ زمان بره ترمیم اون زمان بره سال بعدش فروردین 1402 امانوئل مکرون میره چین در دیدار با شی جین پین دوتا زر مفت میزنه که گنده تر دهنش بوده اجازه نداشته بدون اجازه امریکای نرف بزنه یک بیایید همکاری های نظامی در حوزه آسیا پاسیفیک داشته باشیم دو ما در ماجرای چیز در گیری هایی که وجود و این رقابت ها این نیستش که شما اون طرف باشید آمریکایی و ما سمت آمریکا باشیم ساید آمریکا باشیم. شما اون طرفید آمریکا هم. این طرف اروپا هم خودش مستقله سه تایم حرف مفزده گندهتر دانش بوده. چند ماه بعد پلیس در جریان یک ایست بازرسی به یک پسر 17 ساله. که پشت رول بیده میخواستونه گوبای نابدار نه شلیک میکنه و یادتونه فرانسه چی شد دقیقا شبیه هونگ کونگ عراق ایران فرانسه بعد میفهمید که اون خط قرمز شما اگه مستر رو ندونید <تصفيق> مسئولی سیاست مداری مستر پلن رو ندونه کجا تو داری بازی میکنی تو اینجا خونه میسازی اما خبرت اینجا یه ساعتی هر دو سال بار بازش میکنن خیلی مهمه چین چینمو کنار وایستاده دیگه میگه اینا اینا اینا رو فرسوده کنن خب آمریکا هم که فعلا راضیه اما به شدت نگران اینه که از دست خارج نشه کنترل خارج نشه اونم انتخابات درونام هزار جو بدبختی داره انرژی الان تا اینجا خوب مدیریت کرد امریکا یک سال تو خاورمیانه جنگ قیمت نفت نزولی بوده از روزی که خبر آمد ایران میخوام پاسخ شهادت هنیه را بدهم قیمت نفت سعودی شد. نمیخواهم یعنی میخوام دهم. فکر کنید جنگ در بگیره چی میشه. نگرانی خود ایناست. براورد کردن گفتن اگر فقط حمله به ایران صورت بگیرد یعنی پاسخ اسرائیل به بخش نفتی ایران باشه. همین ده دلار همون ابتدا میکشون نفت. دیون اون بررسی نکردن چرا چون خط میده به تو ایران که اگر ایران مثلا پیامی که میگن حالا ما نمیدونیم ما از مسئولینمون نشنیدیم. قطری ها میگن ما از رسانه خارجی شندیم من چیز نمیکنم تایید و رد نمیکنم خب که ایران پیغام داده که هر کسی م... کمک کنه هدف مشروع ماست یه قطر نفرت نمیذاریم قصه نیست معادلات جدیدی میگم پیچی دست چرا؟ اینجا روسیه خوشحال چین ناراحت آمریکا ناراحت چین میره ساید امریکایی شما انرژی نداره برای اون فکر صورت گرفته ایران بره به روسیه بچینه بگی آقا به این اتفاق بشینه بگی اتفاق افتاد تو نفت چین رو تأمین بکن متوجه اید؟ این یعنی تراهی برای تمام این حالات ها باید فلو بکشی بگی اگر ای بله یا خیر کدومیکی آماده باشی تمام این باید ترسیم بشه و اجرا بشه بات. آمادگی کامل کامل صد باید باشه تمام احتمال ها، سناریوهای مختلف باید آمادگی داشته باشی. یعنی بدونی دیم از این اه... کاربران رسانهای را رسانی درستره نمیشون نشه که چرا همش میگن مثلا اسرائیل فلان جلسه اینا نم کجا رو مثلا مورد حمله قرار داد بابا چرا اینقدر جلسه میذارید <تصفيق> خب از قبل آماده باشید برای این ها برای اتفاقات با پروتکلایی که نمیشید اگه این اتفاق افتاد تو کار خود مثلا حزب الان حزب الله ببینید باید تموم میشد نفر اول زده نفر بعدی هم زده همه اینا رو زده اصلا بعد از هم میپاشید اما آماده بوده برای این روزها. حالا حالا با این فضایی که من ارز کردم برای شما یه خورده وقت بود. یعنی برن روز خودم ترسیم کردم. به من بگید بینه حالا تلی تنش. چقدر این عبارت میتواند دقیق باشد. چقدر نادقیق باشد. چقدر بعضی ها بیخود خود تنش رو افتادن توش. و چقدر بعضی ها اینو این رو ردش کردن. یک جایی واقعیت داره. باید منطقی و معقول بحث این که آیا اسرائیل از پس رو این حساب داره برای آمریکا کار میکنی یا آمریکا برای اسرائیل این که شما دارید میگید ببینید چقدر طرحی جالب بوده یه یهودی یه توی اوکراین روسیه رو درگیر کنه یه یهودی یه دیگه توی اسرائیل محور مقاومت رو این عین همونه یه تفاوت داره رابطه آمریکا با اسرائیل معنی اسرائیل پس اینجوری بشه سگ نگهبان آمریکاس دیگه اشاره رهبری منت با یه بند و تپسری ای. اینو گوش کن رابطه اونها مثل رابطه آمریکا سره رابطه پدر پسری نیست رابطه آمریکا با regime سر رابطه پدر و فرزندش بله پسرم الان وقتش اینجوری مایه بذاری تا تاشم بعد بری پوستت هم کند شه اما دارم اما هماهنگیم تو یه چیزای جزئی با هم اختلاف نظر دارن آقا اینجوری انقدر تو نره آبروی منو تو محل بردی بابا بچهش نمیگه اما نمیذاره کسی بچهش بیفته زندان میره درش میاره صند خونه رو میذاره با یه محلم هم میجنگه رابطه اینه این پسره لات محل شده داره همه میکنه پشتیوانی بابا هرم داره برای باباش هم آورده داره اما بابای یه جای باش تر چیز تاکتیکی با اختلاف نظر نظاراتون آ انتخابات داخلی داریم یه کاری کن جریان قدرت عمره دموکراسی میگه خب ما بمونیم سر قدرت با این کار که او ترامپ میاد که اینجوری داره پیش میری که ببین میخواهی اینجوری کنی که من نمیذارم ماشینا بردا و براتم ال دور بزنی او اینجوری پیچیده تر از این حرفاست که یهوی خط تیمو اینو تحلیلش کنه تا الان هم 18 میلیارد دلار فقط پول گرفته استرالی این چه عددیه 18 میلیارد دلار اون دیواری که ساخت دور تا دور نوار قزده که اصلا دیوار آهنین بهش میگن دیگه. یه چیز عجیب غریبی تو دنیا نظیر نده. کوریه هم خواستن بخرن اینا. مرز با کره شمالی بسازن. قرداده به هم زدن کره یا دیگه. چرا؟ هفته اکتوبر. خیلی عجیبه. سنسور های آنچنانی. سنسور نمیدونم در خاک. سنسور در آب نمیدونم. مصنوعی. بالون دید در شب دید در روز دید زیر زمین بالای زمین اصلا این که اینتون مثلا این رد بشن واقعا شاهکار رو بزرگ کرد با هوش مصنوع ترک میشن کامل تمام موبایل تمام لپتاب هاشون گوشی ها، که دارن اینترنتی اونترنتی، اندرویدی آیفون هرچی آی او اس باشه اندروید باشه همه رو اینا دسترسی کامل دارن من با هادی آمیری یه جلسه داشتم بر عراق شون میگفتش که یکی از این بچه های ما بود این امریکایی ها هی hey, میخواستنش اینو هی hey, میرفت بعد میگه ما اعتراض کردیم گفتم که چرا قدیل میبارید میارید حرفی دارید بزنید یعنی چونجا من بکت خودمون و ها میگهید و بریاستن گفتن یه گوشه آیفون بخره اگه ما دیگه بهش کاری داشتیم حالا نه فقط گوشی آیفون گوش های دیگه هم همینه خب این پیجرهایی که الله داشت مدت ها سوار بودن رو این شبکه این پیجرها فکر نکنیم مثلا پیجرها جی اس داشته پیجرها شنود داشته پیجرها نمچه باترین یرم داشته آنچنانی یعنی اصلا کس گرفت این رو خرید مثلا انجام بده من گل زدم خیلی سخت و مقاوم بوده اصلا میگم امریکایی ناراحت شده بودن. چرا همچین چیزی رو سوزندی به نتانیاهو؟ تا اون نیاز چی داشت؟ رسانه ای. اون نیاز داشت یه فیل هوا کنه. یعنی تو تو تحلیلات باید این خلقیات نتانیاهو و درگیری که خودش داره همین الان کلی درگیری با گالانت داره. هم حزبی فلان اما سر رهبری حزب با هم رقابت دارن. این رو باید لحاظ بش تو نحوه عملیات در غزه درگیری داشتن این با هفته اکتب کنفه یکون شد تا الان 500 هزار نفر تقریبا از اسرائیل رفتن و یا اگه بیرون بودن بر نگشته بخش شما دسته کمی استارتاب ها بوده تحتیل شده رفته اسرائیل به شدت برای که بتونه طرح ابراهیم رو درست بکنه روی آوردن توریسم کار کرده بود کلن تحتیل شد رفت آواره هار برش برده تو هتلا اسکان داده سنت توریسمش نابود شده یعنی از سنت توریسمش جایی نیز بره اینا تو هتلا جا داده این سیلیکون ولی که میخواست بسازه در شمال اسرائیل آقا اینا عقلشون نمیگه شمال اسرائیل جای دیگه میساختن جای دیگه نداره یه <تصفح> جغل جایه مهملی کردی این بر ورطان برش میرید پیر میشی. <تصفح> فروش تجهیزاتش نابود شده همین دیوارو می‌خواست به کره بفروشه همین سامانه اراو میخواستن که از این کشور حاضر گفتن آقا داداش اگه می‌خوای خس جلوی موشکای ایران می‌گرفت جلوی موشکره که نگرفته هیچ خودش خورده خودش خورده این که همون موقعه که شما من شما می‌گفتیم آقا به جنب به جنب به جنب روزی اینا داشتن کار می‌کردن که درست بخوره چجوری شما جابجا میکنید جنگیه بسطه ای تو بعد خلاو برطرف میکنید تو حمله قبلیت متوجه شدی خب این اشتباه پدافندشه اونم فهمیده اونم داره برطرف میکنه در ماجرای حزب الله ببینید چی شده دبیر کل رو زده میگه معاونه دبیر کل رو زدم معاونه او رو هم کیان تا بیرج جید قرار بودامیشم یا اورم زدم الی داره دام کن و بدنه اصلی حزب الله رو هم زدم فرمانده ها رو زدم هر جای دیگه بود تا الان تر. هر ارتشی تو دنیا بود تموم بود چون نمیدونستم چی کار کنم گم میشد اما اینا موزاییکی بلدن یعنی الان مثلا اگه سه تا گردان دارن تو جروب مثال میذارم دارن دفاع میکنن سه تا گردان هر کدام مستقل عمل میکن. یعنی اصلا فکر کن تمام کره زمین نابود بشه کار خودشون او میدونه از کجا باید قذاش گیره اک کجا مهماتشو برداره چه جوری ارتباط بگیره چیکار کنه چیکار نکنه کاملا مستقل ببینید این کاری که با پیجرا کردن کار خفنی بوده واقعا خب اما اما هیچ اثر راه بردی نداشت این مهمه شما کار بزرگی انجام داده اما این کجا این پازل میشینه؟ ببید. ممکنه شما یه کاری کوچیک انجام داده. اما تو پازل باشه به مراتب از سرش ببین ایران میگه یه موشک رد کردم از این سامانت کلی هرچی تا الان پدافند داشته همه پر ضربه نظامی که آمریکاییا به واسط حمله نظامی ما خوردن تو میگرد کسی همه برمیگرد گلوبال هاو که زدیم اینا مخواست... هندی ها میخواستن از امریکا بخرند دیگه امریکا مگه اونو به کسی داده بود اون گلوبال هاو که ما زدیم قیبتش اولا بدونید دو برابر سه برابر چطورتان بیشتر همین اپ سی و پنج ماشه. گرونتره اون سامانه ها و اون چیزایی که داره از لب دریا که اینطوره لب مرز آبی ما تا 600 کیلومتر شیش ست کلوم بلند دو تاورده بود تو منطقه خورد با چی خورد؟ با S-400 با S-300 با سامانه سوم خرداد ایرانی تو اولین شلیک هم کاش مثلا دومی بود هم ازارت اولی خورد من بود هندیا میخواستم بخرن قرداد لقف کرد چیکار این ها؟ پاکستانیا ها میرن سه خورده از چیز میخرن اینه دیگه ببین این نیست ما شما یه موشک رد شد یه موشک رد شد یه موشک کم است یک موشک کم است اما اثری که دارد چیست؟ است هیچ کل پدافن دیگه کسی میونه گومد و با هیچ چیه رسما الان ایران تو اسکیل کشور نظامی در سطح جهانی دارم میره روسیه میگه آقا به ما پهواد میدی به ما موشک میدی دقیق بفرمایید من سر بحث هسته‌ای خیلی حرف دارم سر سلاح اتمی اون تا نمیشه حرف زدی. می‌دونید؟ اگه این پارسال بود یه جوری شاد می‌شد حرف زد امسال دیگه حرف نمی‌شرد. <تصفيق> خب کلی حرف دارم اما یک چیز الان بگم فکر نکنید الان حرف من همین اینه اینکه تو ببین الان هم اسرائیل بمب اتم داره هم روسیه بمب اتم داره استفاده کردن خوردن یا نخوردن خوردن چه استفاده میکنن؟ او یه سطح دیگه است دقیقاً امروز نیازمندی تو سلاح چیه متعارفه آیا نباید بازار نری نگونا بالاتر ببریم بنده نظر من که قطعاً باید ببریم خب من نظر میگم اما سر بحث اینطور اینطوری شما نیست خیلی حرف داره خیلی نکته داره خوب نهایت داشته باشید یعنی من هم نکاتی برای موافقان دارم و هم برای مخالفان خب این پس اینطور نیست سلاهای متعارفه الان رژیم سی میخواد جواب ایران بده چه جوری جواب بده میگه خودمون هستیم جای اسرائیل ما خبر نداریم ما جای اسرائیل نه جای ایرانییم جای مسئول نظامیمونیم نه اسرائیل یک قدرت موشکی نیست اسرائیل هواپیما داره اف 35 رو بردارم آمریکا های اگه بردی زدش چی گلوبال هاکر زده چیزی میمونه برای سنت نظامی من از کجا می ببری؟ این به همه کشور اطرافش هشدار داده گفته از هر کدومتون بیاد اصلا بازم من خبر ندارم قربی ها دارم میگن ایران روی عراق و ترکی که پرواز ممنوع اعلام کرده گفته اگه هواپیما اونجا بید من زدم اونا دارن میگن. الان آی عراق چی دیروز عربستان بود؟ چه پایمه برده؟ همین ناس. بخشش این که اگر فضای شما مورد استفاده اسرائیلی قرار بگیرد چیکار کنه؟ بعد حالا با چی بزنه یه چی؟ کجا رو بزنه؟ اگر انرژی رو بزنه مثلا به تو همین جنوب چند تا بزنه بیره. خب اون شکه قیمت نفت چی؟ به ایران اصلا جواب نده اگر ایران یا مثلا اعضای مهور مقاومت مثل یمن حوستگنگ یه حالی دوباره آرام کو بدن اصلا اون موقع هایپرسونیک نداشت این هایپرسونیک خرد تو اسرائیل هایپرسونیک ها رو میگم و نه مال خرد تو اسرائیل بن سلمان واجب التعویض و تضمان شد این با خود شد. واو اینا کج دروردن؟ هر کاخشون امنیت شخصیشون بخش انرژیشون او کلا عربستان داره تو فاز توریسم 500 میلیارد دلار یه دونه نزنه کریس بلند شده بره کیریس رونالدو جوردیار کار کنه خب کسای دیگر تو زمی خواسته بیاره آره اینن رو بیرن خب حالا اینجا عربستان چی میگه به اسرائیل امارات چی میگه به اسرائیل نیه اکی. دو بخش هسته ای رو بزنه آها آه آه. اون بخش هسته‌ای فعال میشه که گفتم نمیشه روزش خیلی حرف زد اصلا دکتری هسته جمهوری اسلامی نماینده مجلسان نامه دادن بعضی از مسئولی مثلا مسئول حفاظت نتنز صحبت کنه نماینده مجلس نطق کرده بعضی از افرادی که تو حوزه فعال هم. مثلا مثلا آقای حسن آقای خمینی تو تلویزیون یه نکته گفته نمیدونم اینا ای ایران نزد داره میرقصه حمله به مناطق هسته‌ای چه نباتیم میدونی چقدر فاصله داره با دیمونا هیچی بسیار نزیم چند کلومت فاصله داره. ما جای محافظت شده تر از نباتیم در اسرائیل داشتیم خیر خورده یا نخورده فقط از روی فیلمات چلو تا موشکی حسابت شده درود فقط از روی فیلمات چلو دو تا قبلش چقد بوده بعدش چقدونه شد چند تاش نشون داد 4 تا 5 تاش هم شد همشون شد و اینا معنی داره هستی هم که نشود انرژی هم که این بیایم سر پایگاهای نظامی ایرانو بزنیم تاسیسات اون خوب استرایک کلا 4 تا پالایشگاه داره دو تا آب شیرین کن بزننتش نمیمیرا نمیشه زد، خورده پیام مهمی مخابره شده اونایی که میگفتن پس چی شد پاسخ ایران پس چی شد پاسخ ایران داشت بررسی میشد انجام میشه یه کنشگری سیاسی و اتفاق میافتاد که خود آقاین دولتی لو دادن رئیس مجلس صحبتی کرد رئیس جمهوری صحبتی کرد کسایی دیگه توییت زدن آقای بوده مثلاً رئیس گفت قرار بوده به ما قولاده بودن آتش بس بشه حالا آدم های کمتری کشت بشن تو غزه ها حرفی اما وقتش گیری بخشش دارم گفتم همهانگی نظامی بوده اما حالا خورده چرا اینا الان در مورد پاسخ اسرائیل اینجوری چیزی نمیگن چی شد فلان شد به همان شد اسرائیل الان چارهی جز بمباران داره کاری جز بمباران داره انجام میده یکی من میگه هیچ فقط داره بمباران کن بیشتر از یمن میخوای بمباران کنی هشت سال عربستان پاکستان مصر سودان اسرائیل آمریکا، انگلیس اردن اونجا رو بمباران کرد. پاکستان که یعنی خلبانه پاکستانی میبیند سرتی پرواز بهشون پول میداد اون بارا چونه کرد. گفت تمام شد او خیلی زیبا بود های پرسونی کرده رو بود ما نمیگیم اون خوب است نمیرم چی بله بده و ما ناراحتیم شهید داره داده میشه جگرمون خونه اما او به هدف راه بردیش مطلقا نمیرسه فقط کافیه کسی بتونه این راه برده. حمله هوای اسرائیل رو هم به هم بزن یعنی یه هواپیمای بخوره تو آسانون اون دیگه همه چی عوض میشه تو جنگ رسانه ایش که خیلی مهمه آی اسلام زرفه خوبی زد طلاعا شاید بخیه که کلی بودن متوجه نمتوجه نشن ایشون با, با هر کسی هر طوری میتونه کمک کن اینا تمام کاراشون پیوسته رسانه ایداره الان یه جایی هم بالاخره توی هم باید بزنگ نظر اسرائیل تموم ها نظر منی من من که صد درصد میزنه یه جایی رو خ خب نظامی فقط میمونه براش بزنه که نظامی هم بزنه باز نظامی میخوره مثلا بیشتر نظامی خواهد خورد منم برداشتم اینه که جمعه پاسخ محکمتر خواهد داد چون فهمید جمعه به خود جمعه اسلام اثبات شد و به دنیا هم اثبات شد این کتابی این وحشیه باید درست حساب بزد تو دهنش دا جنگ رسانه اسرائیل نیاز به برد رسانی داره برای هم پیجرور تکن وقتش نبود یا ماجرای ترور هم زمان صد از با سخنرانی نتانانی او که صفحه تلویزیون دنیا دو بخش میشه این سخنرانی نتانی او این خبر به ض خشون حف نصروللا. این همش کار رسانه دیگه سانسور شدید گفتم قوانین تو در سخن اینترنتی بر سنسورش شاید روششون همینه یک جایی که خورده و کم خورده خیلی بیربتر میرن نشون میدن رو همون یه دونه زوم میکنن آقلا کلا کتمان نمیکنن. اگه ست تا کشته داره چهار تا رو نشون میدن ما یه جای کلن اصلا بعد یه فیلمش چیزی میاد بیرون آقا بعضا این اتفاق خیلی بد پیام دادن به تمام رسانه حق انتشار نداشت تنها خبرنگارانی اجازه میدن تو نوار غزه برن که گزارش که میدن با تسامه و تساهل باش. مدیریت شده باش مراکز جمعیتی را نمیزنن مطلقا چون این مجووزینه که تو هم مراکز چی را جمعیتیشون بله اسرائیل و بقیه کشور فرق داره که مردمش با دولتش داشته باشه این همه اشغال گره. خاطرتون باشه یکی از مسئول دولت نهم معاون رئیس جمهور اومد گفت ما بین مردم آمریکا و اسرائیل و دولت هاشون فرق قائلیم جنگ جهانی شد تو ایران آمریکا رو کار نداریم اسرائیل اینطوری نیست که اصلا رهبرن قابل باکنش نشون دادن حالا اسرائیل مراکزی جمعسن اصلا اون موقع است که شما اصلا لزومی یک که های دقیق تو استفاده تو فقط برو سمت تل هر جا بخرویی یک کاری هست یارو چون همه مسلح مسلحن همیشه شما دیدید یکی از ها با چاقو حمله کرده بود وقتی دوربین نشون دادا یارو با شلوارک کلت دستش بود گرفته بود رو فلسطینیه اینا هم باغلش راحت ای اینجا بریم دفاع فروشگاهشون نشون میدیم می زن اومده خرید داره میگم فروشگاه خرید میکنه M16 این داخل رو دوشش اینه اونجا دیگه اصلا راحتی اون شهاب محابا هر چی داری تا ته انبار میریزی دیگه خیلی خرنگ این کار کنه حماقت محضه برای ما مثلا همین میگه که ما اقتصادی میجنگیم ما موشک رو میزنیم مثلا خوب خوباشم همچه نمیزنیم که مثلا من دمیگه آو ایران چندین پا... هایپرسونیک زده من برداشتم این نیست نمیا اون مشب با کسه شد این ها... همین تایمی که برد اصلا اینا شاهکار کردن بچه های موشک جوری ارتقاه دادن روی سرعت که اینا که شما فکر می‌کردید توی تصویر های پرسونیک کهپرسونیک نبوده اما نمیتونست بزنه چهار ما خو میتونن از ظاهرن بزنن پدافند داشت که بعدش قطده دیگه اینا که نه اینا که نزنه هیچ دیگه بزنن آمریکایی هم نمیتونن بزنن انو شما امریکا اسرائیلی که فقط نمیزنه هر دفعه اسرائیلی اینجوری با تکنولوژی میزنه یه چک میزنه به امریکا بچه‌عر میزنی باباشم دردش میگیره اینجوریه مرکز جمعیتی هم که نمیشه آیا جنگ تمام ایار را اسرائیل میپسندد امریکا میاد خیر اسرائیل هم میگه خیر میگه من قرار درست این کریدورر میخواد بن بدید بشه اما ها بدون اما خب کی بشه هاو دنیا چی چیز ازم نمیمونه دیگه اون موقع. اصل کار،, کار رسانهی که من شما باید انجام بدیم تو جهان اسلام جهان. این مسلمونا باید خونشون به جوش بیاد فشار بیارن به مصر فشار بیارن به اون اردن بی غیرت هر روز باید اونجا تظاهرات باشه هر روز باید فشار رسانهی سنگین مرز دارن اینا شدن مدافع اسرایی رسما دارن از اسرائیل دفاع میکنن این اصلا به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. نه ایران هیچکیو نزده. وقتی میگه ایران هیچکیو نزده یعنی نمیخواد موخم جواب بده. آره دیگه اگه بگی خب حیثیت میکنه. عضو میت. سیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه میگه من بارها به اسرائیل سفر داشتم. میره اینا با هم هم پیمانم متاسفانه پشت پرده. اصلا بدونید اینا اردوغان سر کار آوردن چون کشور ترکیه در آستانه یک انقلاب اسلامی بود. آوردم با شورای ضد صهیونیستی، الان حرف مفت می‌زنه، دیدی دروغ میگه دیگه، نفت میده بهش. همین ترکیه که از اهداف بد باشه برای آگاه کردن مردمش. این همه ما ترکای خودم خودمون، آذریای خودمون چیکار دارید می‌کنید؟ تا جایی که میشه، بله تفاوت بین زبان استانبولی و آذری خیلی فرقه. اما الان با گوگل ترنسلیت، حوش مصنوعی، چه من استفاده کنید، آگاه کنید. اسلامی را به خاطر اینکه جلوی گلن وایس ترکیه اردوغان براونا مثلا یک نماد اسلامی خیلی ارزشمنده چون ما تو کشور اسلامی زندگی میکنیم که جمهوری اسلام خیلی قدر اونها که لایکی خیلی مثلا قدر اردوغان میدونن بین بد و بدتر مثلا باید بد و انتخاب بکنن بعد آگاه بشن بعد فشار بیاد جمهورها زربوجان همونطوری یعنی چی شما 40 درصد نفت اسرائیل داری تامین میکنی همه اینا میشه بنزین همون هواپیماها تو پالاشگاهاشون میشه بنزین همون ماشینا همون سوخت همون تانک یه کشور مسلمان این کار که ما انجام بدیم بابا دیگه رحبرمون فتوا داده من آقا جون فرض است میته ترکیه این افسرش بلند شده رفته اونجا او میگه سی نفر از نظامیاشون کشته شدن تو حمله موشک ایران رسمن مصاحبه کرد 341 نفر صدا شده هر نمیدارن او رو به کنار بگذارید کنار وزیر دارایی رژیم رسما داره سخنرانی میکنه میگه چرا امریکایی ها کمک نکردن تو این دفعه, دفعه دوم تو زدنه نمیدونم موشک های اینا اولا چرت میگه امریکایی کمک کردن خوب کمک کردن من ام در همون موقع توییتاشو زدم رفتم از خود امریکایی ها پیدا آوردم. توییت زدم توییت انگلیسی خود طرفو آرشیو نوشته آقا موشکای اس ام نمیدونم فلان چند میلیون دلاریه کلا تو یک سال آمریکا دوازده تا از اینا تولید میکنه برای پادافان هر دوازده تاشو خالی کرده بوده سره یعنی از تو یک از نواشون تو در یه صور تولید یک سالشون چند تا موشیتون است بزن هیچ اثری نذاشت ایناگه بیان داد بزنن آمریکایی‌ها آبروی خودشون رفته تمام قد اردون میهی نتاجه که تونستن کمک کنن نتونستن از اون طرف پمپو میگه ایران پانصد هزار موشک ساخته است او کیه او رئیس سی ای بوده پونصد هزار موشک فقط دیویس داشت بلن کرد نه های داشته پاسخ ایران و تمام ارزم یک نه شتاب زده نه تعلل پاسخ ایران باید اینجور بشه ببینید جنگ تکنولوژیه باید با دقت انتخاب بشه باید سنجیده بشه گام بعدی چیه یوهایی همینجوری خرکی بزنی یه کاری یا اشتباهی انجام بدی بعد ببینی اه مثلا کشور دوست و همپیمان مثلا ناراحت شد یه چیز رو بس رود. نگه ترسونم که آدم اونا نیستیم ما بر دفاع از حق و حقیقت ما افتخار میکنیم که محب اولاد امیرالمومنین هستیم و دنیا داره میبینه که اون مولایی که تا زنده بود یار و یاور مستضعفان بود الانم بچه‌هاش یار و یاور مستضعفانا و محبین و شیعیانش یار و یاور مستضعفانا این که از هدف اصلیه اما بله یک بخشای ملاحظات دنیوی هم داریم اینجوری نیست باید یه سری آماده بشه ها در حال تغییرن هر جا رو بزنن پیامی که اینا میگن اون بریان میگن گفتش که معادلش میخوره حالا تو الا ماشاءالله پالاشگاه داری اون کلنا چهار تا دونتا. چیز ازش نمونه اون یه جغل جای. کجا ایرانو بزنه حتی به مراکز نظامی ما حمله کنه فکر کرد برای چی یه چند, زن... چند تا از از می زنن، از شیراز میزنن چند تا از لرستان میزنن چند تا از از آذربایجان میزنن چه کرمانشاه میزنن برای چی بفهمی اون گسترده است تازه فکر کرد دستگاه نظامی ما اینقدر مثلا اینو متوجه نیستش که مثلا از اینجا میزنه رم رو کنه چی بعد بکنه هر کشوری کمک کنه هم خورده خودتون الان میزن جا اسرائیلی همین میشه یه در روزه دارید فکر میکنید اما یه کاری خطر بوق اسرائیل اقرب تو شیری پنجه رو میزنی اقرب پنجه نداره به انجا بزن. وای میسته زمینه سازی میکنه ممکنه آشوب تو داخل لرز کن یه کار دیگه کنه یه جنس دیگه ای اما بدونید حتی ترور هم پاسخ حمله موشکی بگید نیست چون مردم دنیا همه دنیا میفهمن توی اسرائیل پادگانی دور تا دور تو بستی هیچ کسی را نمیدی اینجا یه کشوره تو پادگانی یه کشور جنگی یه کشور با یه پادگانه واقعا همینه مرزهای های گسترده نمیدونم خوب آدم داری مخالف ها نمیدونم مخالف نظامن همکاری میکن نفوزی داری چقدر تذکر شدید روستن روبری آقا نفوز نفوذ نفو دفعه اول که زدی اومدن چیکار که یه دونه هوا کردن تو اسوان از تو ماشین پیدش دادن با کنترل. از این کارا میتون کنید این پاسخ دیوی سی ست موشک نیست یعنی تو دنیا تو اسکله نظام میگی اون که بچه‌بازیه مثلا ترور یه همچین یه نفر توی ونیه وسط خیابون پیاده شه شروع کنه مردم رو اکبر بگیره نمیتونه پلیس میخواد مثلا از آسمون یهویی برسه زمان میبره دیگه خودش هم درن مثلا برم تو خیلی جای دنیا ممکنه خب که سودشه. اون مردمو کشور متحدتر می‌کنی تروریست بودن تو قشنگ جا میندازی جزینه اصلا یه سال هر بار از این کارو کردن اگ ضربه نخوردن انقدر ضربه خوردن که خودشون میگن کار نظامه ها چراغ اتفاق میفته مگه خودشون نه اینا کار خودشونه چرا میگن کار خودشونه چون تو تحلیل سیستم کسایی که سود میبرن یا ضرر میکنن میگن که, خوب... که به سود نظامشون هم میشه که لا کار خودشون نه چاره دیگه این نداره پس هیچ چیزی به این اسرائیل محکوم به هنوز هیچ پاسخی نداده محکوم به شکست چیزی نمیمونه حمله اتمی کند جرعت نداره جای حسدهی رو بزنه حمله اتمی کنه تمام اون استدلاله که سر هستی گفتم اینجا هم هست اینجا تیکیه اصلا تمامه خود خارجی گفتن ما نمی‌گیم باست بگیم به چه روزی ما رو انداختن خدا اینا ازشون نگذره که ما میخوایم تحلیل بدیم بعد بگیم خارجی ها گفتن به خدا دنیا حتما جواب دارن پیش خدا شان اگر ولو یک نفر به گوششی دیرتری تعلق درست برسه مدونه جواب بدن دیگه خود خارجی ها میگن بعد از وعده صادق ایرانی ها نزدیک به سی بار 24 خورده با سی بار آزمایش جدید انجام دادند چی بوده من نمیتونم راست میگن من نمیدونم سیور آزمایش چی بوده بعد اینا اون لبه علم ما که نیست اون چیزایی که داشتیم خیلی از این موشکایی که شما درید اسمشون میشناوید اولین بار بریم از ماشینا مثلا 10 سال پیش بوده 15 سال پیش بوده اون زمانی که ما واحد مهندسی تو مجموعه داشتیم دنبال این ایده ها و این طراحی ها بودیم مثلا مثلا دستگاه قالب مقال ریز برنده ها که درست کردیم ما نمیدونم یا ساختیم اسلحه و فلان یه نوعی از موشک بودالا باز برای که قصه درست نکنه نمیدونم توضیح بدم این جذاب مدلش که این چه رو عمل میکنه بعد ما کلی رو این کار کردیم و همه چیشم هم دیدیم میشه به دست آورد. کامل من با متخصصینش نشستم و کلی وقت تلف کردیم <تصفيق> بعد رفتم به ذات دفاع به خود وزیر گفتم منو کرد به این نفر دیگه با او جلسه گذاشتم گفت او ساختیم بابا نه گفت ساختیم او با خودش میگه حتما این سلاح هایی داره که تا الان رو نه هیچ آدم آقل این کار نمیکنه اونا دیگه چیه؟ این ابهام روانیشون کرده اما نابودی اسرائیل بدانید جز با آگاه کردن همین اردنیا همین کرانه باختری همین مردم بریزن تو خیابون تمومه به خدا قسم. همین مردم اردن برن لب مرز تمومه میمیشون مثلا یه میلیون آدم روش بمب بنازید به خدا تموم باید این ترس و دیوار ترس اسرائیل می ه اکتبر اینکاری کرد. از اون دیوار رد بود که نباختتر که چیزی نیست نسبت به اون به غزه نه ترسید رد کنید چند چندبار هم مگه میخواد زندگی بکنید که با شرافت زندگی کنید. شما ببینید من توی تام یه خطی اینجوری رو دارم دنبال میکنم نساز به جامعه مسلمانان همین نمی‌خوام تحریک بشه طرف رو بخوش دو, دو تا چهار کنه ببین چه خبره هی برای اینکه بتونه مثلا خودش خودینش رو جنایتی گنده تر می‌کنه مثلا لبنان اصلا پدافند نداره هی هو بالام ولم دو تا ما سمت ما بفرست سال تو اینه بعد ما الان ما بخوام از این مملکت بریم کجا باید بریم هیچ جا نداریم بریم جز ایران <تصفيق> اما او اصلا مال اونجا نید یه جا دیگه اومده و گلنشه اون میگن هزار نفر رفتن الان بست است. اجازه خروج نمیدن یعنی امکان خروج برای هم نیست چند تا ها به ما بپره یه راکت میزن به انگوریان تحتیل فردگاه تعطیل. الان از طریق کشتی سریو دارن انتقال میدن. از کجا میخوان برن؟ بذارید یعنی اصلا که دلایلی که رژیم داره جنگ جنگو کش میده همین اگه یه تنفس بخواد بکشه تمومه. ببینید چه جوری فرار میکنن میرن. که باز هم رو همون سیستم و نظامات عرض کردم هر موقع دیدید اینجوریه. من شما منتظر باشید که در بیرون به سرویستا چی بشه؟ بله حمله بشه که بگم باز برای شما بهترین اینجا چیه؟ استرالی این روش شده یعنی منتظر باشید. آ من اقتصادی مونده خب یعنی همون بحث همین شرکت ها خب اینو بکنم اصلا بذارم برای یه جلسه دیگه بعدا باشه بهتره هم وقت نماز شده هم شما چقدر محزدم؟ من, من دو ساعت نامرددا. <تص> خیلی خوشحال شدم از اینکه خدمتتون بودیم این اینجا عرض سخنرانی گوش نمیکنید، اینو دنبال کنید چون آره این مستر پلند و کلانتره آینده دنیاست و این فضای آخر و زمانی که در پیشه و انشالله منجر به ظهور حضرت ولی اسر هم بشه برکست سلواتی آر محمد و آل